همه ی آدم ها دشمن ما هستند و همه ی حیوانات دوست ما هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست منبع همه ی مشکلات ما یک کلمه بیشتر نیست بشر این زندگی که ما داریم فقط بدبختی و بردگیه همه ی حیوانات با هم برابرن. بشر رو از صحنه بیرون کنین تا ریشه گرسنگی و بدبختی برای همیشه بخوش بشر تنها دشمن واقعی از دست بشر خلاص بشین تا حاصله رنجتون مال خودتون بشین این پیام من به شماست رفقا شوره تا زمانی که این انقلاب به سمر برسه مزرعه حیوانات، اثر جورج اروه ترجمه عباس زاری با صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر آموت فصل اول شب آقای جونز مالک مزرعه مانر در مرغداری را گفت اما از بس مست بود یادش رفت دریچه های بالای آن را هم ببندند در حالی که حلقه نور فانوسش می و به این سو تاب می از حیات رد شد چکمه هایش را در آورد و پرت کرد دم در یک لیوان دیگر آبجا از بشکه اتاقک که کنار آشپزخانه پر کرد و به سمت اتاق خواب رفت صدای خور و پف خانم جانز از همین حالا بلند شده همین که چراغ اتاق خواب خاموش شد، حیوانات مزرعه به جنب و جوش درآمدند. شایعه شده بود میجر پیر، برنده جایزه خوک سفید، شب پیش خوابی دیده که می‌خواهد آن را با حیوانات دیگر مزرعه در میان بگذارد. قرار گذاشته بودند وقتی آقای جونز خوابید، همه توی آقل بزرگ جمع شوند. همه در مزرعه به میجر پیر اغلب به این اسم صدایش می‌کرد. چند با نام زیبای ویلیندون جایزه را برده بود. احترام میگذاشتند و حاضر بودند یک ساعت از خوابشان بزنند تا به حرفهای او گوش بدهند. ته آقال بزرگ سکوی پوشیده از کاه بود که خوابگاه میجر پیر به حساب می آمد. بالای سرش از ستون چوبی فانوسی آویزان بود. میجر پیر دوازده ساله بود. اخیرا کمی چاق شده بود. اما هنوز هم هیکل خوبی داشت. با وجود اینکه دندانهای نیشش هیچ وقت کوتاه نشده بودند، چهرهی دانا و خیر داشت. طولی نکشید که حیوانات یکی یکی از راه رسیدند و خود را در آقال بزرگ جا دادند. اول از همه سک ها آمدند. بلوبل، جسی و پینچر. بعد خوک ها از راه رسیدند و جلوی سک نشستند. مرغها روی لبه پنجره نشستند. کبوترها روی تیر افقی آغال آرام گرفتند گوسفندها و گاوها پشت سر خوکها لم دادند و شروع به نشخار کردند دو اسب بارکش یعنی باکسر و کلوور با هم آمدند با احتیاط و آهستگان بر داشتند تا مبادا حیوانات کوچکی را که ممکن بود زیر کاه مخفی شده باشند زیر سمهای بزرگشان له کنند کلوور مادیانی میان سال بود که بعد از به دنیا آوردن کره چهار روم، دیگر هیکلش روی فرم نیامد. باکسر اسب درشت اندامی بود که قدش به هجده دست می رسید و به اندازه دو اسب معمولی زور داشت. خط سفید روی دماغش ظاهری احمقانه به او داده بود. چندان باهوش نبود اما به دلیل سخت کوشی و قدرتش در کار برای همه محترم بود. بعد از اسب موریل، باز سفید و بنجامین الاق مزرعه آمدند. بنجامین مسمنترین و بداخلاق حیوان مزرعه بود به ندرت حرف میزد و اگر هم چیزی می گفت، همش همشقر زدن بود و عجویی. مثلا می گفت، خدا فقط به این دلیل به او دم داده که مگس ها را بپراند ولی ای کاش نه مگسی بود و نه دمی در میان حیوانات مزرعه او تنها کسی بود که نمی دلیلش را هم که میپرسیدند میگفت چیز خندداری نمی که به آن بخندد. فقط با باکسر رفیق بود. یک شنبه ها دوتایی در چراگاه پشت باغستان می بدون آنکه حرفی بزنند. از پا تازه لم داده بودند که چندتا تا جوجه که مادرشان را از دست داده بودند به صف وارد آقل شدند. دنبال یک جای امن می گشتند تا زیر دست و پا له نشوند. کلوور با دستهایش آنها محافظی ایجاد کرد. جوجو اردک ها به محض اینکه خیالشان راحت شد به خواب رفتند. در آخرین لحظه مالی، مادیان سفید و زیبا و خلوچل در حالی که قند میخورد با ناز و ادا وارد شد. کار او کشیدن دروشکی آقای جونز بود. جایی همان جلو نشست و شروع به بازی با یال سفیدش کرد تا توجه همه را به روبان قرمز روی آن جلب کند. دست آخر هم گربه آمد. طبق معمول نگاهی به دورو انداخت تا جای گرم و نرمی برای خودش پیدا کند. بالاخره خودش را چپان بین باکسر و کلافر. بعد هم شروع به خیر خیر کرد و به یک کلمه هم از حرفهای میجر گوش نداد. حالا همه ی حیوانات حاضر بودند. جاز موزز کلاق اهلی مزرعه که پشت در پشتی آغل به خواب رفته بود. وقتی میجر دید همه آمدند و مشتاقانه منتظرند تا او سخنانش را آغاز کند، گلویش را صاف کرد و گفت <تصفيق> <تصفيق> رفقا، حتما در خواب عجیب دیشبم چیزهایی شنیدین خواب را بعدا براتون تعریف میکنم. اول می خوام چیز دیگهی با اتون حرف بزنم مطمئن نیستم چقدر دیگه از عمرم باقی مونده اما نهایتا چند ماه بیشتر بین شما نخواهم بود بنابراین این وظیفه خودم میدونم دانش و خردی رو که تو این مدت کسب کردم در اختیار شما بذارم من عمر درازی داشتم وقتی که توی آقل تنها بودم خیلی وقت داشتم برای فکر کردن من به ماهیت زندگی تو این دنیا پی بردم میخوام درباره این موضوع با شما گفتگو کنم رفقا زندگی ما چطور میگذره؟ بذارین باش رو به رو بشیم. زندگی ما کوتاه، طاقت فرسا و نکبت باره. به دنیا میاییم و به همون غذای بخور و نمیری میدن. بعد تا آخرین نفس از همون کار میکشند هر وقت هم که از کار افتاده بشیم، با بیرحمی تمام سلاخیمون میکنن. هیچ حیوونی در انگلستان بعد از یک سالگی معنی شادی و خوشبختی رو نمیفهمه. هیچ حیوونی در انگلستان آزاد نیست این زندگی که ما داریم فقط بدبختیه و بردگی این حقیقت مثل روز برای من روشنه اما این واقعا جزی از طبیعت ماست؟ به این دلیل که سرزمین ما نمیتونه برای همه ما زندگی خوبی فراهم کنه؟ نه رفقا هزار بار نه خاک انگلستان حاصل خیصه آب و هواش هم حرف نداره. این زمین میتونه غذای همه ما و حتی تعداد خیلی بیشتری رو تأمین کنه. همین مزرعه ما امکان پرورش ده اسب و بیست گاو و صدها گوسفند رو داره. طوری که همشون در رفاه کامل زندگی کنن. زندگی که حتی نمیتونین تصورش رو بکنین. پس چرا ما داریم با این بدبختی زندگی میکنیم؟ برای اینکه حاصل تقریبا تمام زحمات ما رو بشر به سرقت میبره منبع همه مشکلات ما یک کلمه بیشتر نیست بشر بشر تنها دشمن واقعی ماست بشر رو از صحنه بیرون کنین تا ریشه گرسنگی و بدبختی برای همیشه بخوشه بشر تنها موجودیه که فقط مصرف میکنه و هیچ تولیدی نداره شیر نمیده، تخم نمیذاره اونقدر ضعیفه که نمیتونه گاو آهن رو بکشه نمیتونه اونقدر سری بدوه که خرگوش ها رو بگیره با این وجود ارباب همه ی حیواناته از حیوانات کار میکشه غذای بخور رو نمیری بهشون میده و بقیه محصولات رو برای خودش برمیداره. کار ما زمین را آماده کشت میکنه کود ما زمین رو حاصل خیز میکنه اما از سودش چیزی به همون شما گاوها که جلوی من نشستین همین پارسال چند هزار گالان شیر دادین چه اتفاقی افتاد برای اون شیرها که باید صرف پرورش گوساله های شما میشد. قطره قطره اون شیر از گلوی دشمنان ما پایین رفت شما مرها پارسال چندتا چند تا از تخماتون تبدیل به جوجه شد بیشتر تخم مرها به بازار برده و فروخته شدن تا برای آقای جونز و خانوادهش درآمد ایجاد بشه و تو کلوور، اون چهار تا کارت کجان که الان اسای پیریت باشن؟ وقتی یه ساله بودن، فروخته شدن و تو دیگه هرگز اونها رو نخواهیدید. در قبال اونها و این همه کار طاقت فرسا چی گیرت اومده؟ جز یه جیره ناچیز و زندگی تو کنچه استرد؟ تازه همین زندگی طاقت فرسا هم به انتها نمیرسه و به مرگ طبیعی نمیمیری. در خودم گلهی ندارم چون خیلی خوش شانس بودم. دوازده سال عمر کردم و بیش از چهارصد تا بچه داشتم. زندگی طبیعی یه خوک باید اینجوری باشه. اما به ندرت حیوانی از کارد سلاخی بشر جون سالم به در میبره. شما خوک های جوون که روبروی من نشستین به یک سال نمی که کشته میشین و فریادتون به آسمون بلند میشه. این سرنوشت همه ماست. گاوها، خوکها، گوسفندان و بقیه. حتی اسبها و سگها هم سرنوشت بهتری نخواهند داشت. تو باکسر، روزی که قدرت ماهی چاد از دست بره، جونز می فروشد. اون وقت سرت رو میبرن و گوشت تو میدن به سگهای شکاری. <تصفح> سگها هم وقتی بی دندون و بی مصرف بشن، جونز آجر میبنده به گردنشون و توی نزدیکترین برکه غرقشون میکنه. پس رفقا، این مثل روز راشنه که تمام بدبختی ما از گور این بشر ظالم بلند میشه. از دست بشر خلاص بشین تا حاصله دست رنجتون مال خودتون بشه. بدون وجود بشر تقریبا میتونیم یک شبه آزاد و ثروتمند بشیم. حالا چه باید کرد؟ باید شب و روز تلاش کنیم تا نسل بشر رو از بین ببریم. این پیام من به شماست رفقا. شورش نمیدونم این شورش کی به ثمر میشینه شاید یک هفته طول بکشه شاید هم صد سال اما مطمئنم که دیر یا زود ادالت برقرار خواهد شد همونقدر مطمئن که که این کار رو زیر پا میبینم باقی عمرتون رو روی این هدف متمرکز بشین رفقا از همه مهمتر این که پیام من رو به نسل بعدی هم برسونین تا زمانی که این انقلاب به سمر برسه و به یاد داشته باشین رفقا هرگز نباید در عزم شما خلالی وارد بشه هیچ استدلالی نباید گمراهتون کنه به این حرف و گوش ندین که میگن بشر و حیوانات منافع مشترک دارن یا خوشبختی یکی خوشبختی دیگری هم هست اینها همش دروغ محصه بشر فقط به فکر منافع خودشه شما حیوانات باید همیشه با هم متحد باشین همه ی آدم ها دشمن ما هستند و همه ی حیوانات دوست ما سخنان میجر پیر شور و گوغایی در حیوانات ایجاد کرد چهار موش بزرگ هم از سوراخشان بیرون خزیده و به حرفهای گوش می کردند ناگهان نگاه سکا به آنها افتاد موش ها اگر دیر جنبیده و به سوراخشان فرار نکرده بودند جانشان را از دست میدادند میجر سومش را بالا برد تا همه ساکت شوند رفقا باید تکلیف این قضیه رو روشن کنیم که حیوانات غیر احلی مثل موش و خرگوش دوست ما هستند یا دشمن ما بذارین رأی گیری کنیم مسئله رو اینطوری به رأی میذارم آیا موش ها دوست هستند رأی شد و رأی به توافق رسیدند که موش ها دوست هستند فقط چهار رأی مخالف داده شده بود که سه تا مال سک ها بود و یکی مال گربه. البته بعدن معلوم شد که گربه هم رأی مثبت داده است و هم رأی منفی. میجر پیر ادامه داد. دیگه حرف خاصی برای گفتن ندارم. فقط این رو هیچ وقت یادتون نره که بشر دشمن شماست. هر دو پایی دشمن و هر چهار پا یا حیوان بالداری دوسته. یادتون باشه که بعد از پیروزی بر بشر نباید مثل اونها رفتار کنین از عادات اونها پرهیز کنین هیچ حیوونی نباید در خانه زندگی کنه توی رخت خواب بخوابه لباس بپوشه الکل بنوشه تنباکو دود کنه به پول دست بزنه یا درگیر تجارت بشه همه ی عادات بشر شیطانی هستن از همه مهمتر هیچ حیوونی نباید به حیوان دیگه ظلم کنه هیچ حیوونی نباید حیوون دیگه رو بکشه همه یه حیوانات با هم برابرند. و حالا رفقا خواب دی شبم رو براتون تعریف می شاید نتونم براتون خوب توصیفش کنم. اما خواب دیدم زمین خالی از وجود بشره. وقتی که خیلی کوچیک بودم، مادرم و بقیه خوگها سرودی قدیمی رو زمزمه می که فقط آهنگ و سه کلمه اولش رو بلد بودن. من هم در بچگی آهنگش رو بلد بودم اما به مرور زمان از ذهنم پاک شده بود دیشب توی خواب یاد اون سال افتادم و آهنگ و تمام کلمات و اون سرود به خاطرم اومد سرودی رو که در زمانهای بسیار قدیم حیوانات میخوندن و با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده بود دوستان حالا میخوام اون سرود رو براتون بخونم من پیر شدم و سلام گرفته اما وقتی سرود را یاد گرفتین خودتون اون رو با صدای بهتر بخونید اسم این سرود هست حیوانات انگلستان میجر پیر گلویش را صاف کرد و شروع به خواندن کرد صدایش گرفته بود اما بد هم نمیخواند آهنگش هیجان آور بود چیزی بین دو آهنگ کلمنتاین و لاکو کاراشا. بشنوید ای دوستانم یک زمان تا هم این داستان شرح و بیان میرسد از رهب زودی آن زمان که از بشر روی زمین نبود نشان این چراگاه و مزار باقه جملگی باشد همه از آن ما حلقه از بینی ما ید برون بار نبود پشت حیوان زبون نشتر و افسار و شلاق و انان جملگی برچیده گردن از میان تا به جایی ثروت ما بررسد کین بشر بر ما برد رشک و حسد گندم و جو شبدر و یونجه الف میخوریم آزاد با شور و شف این زمین گردد درخشان همچو زر نرهایش پرز آب و پرگوهر از نسیمش بررسد بوی بهشت پرسمر باشند جمله زر و کشت چون که آزادیم در آن روز و شاد همچو رود و همچو ابر و همچو باد لیک این آزادی و این بخت و کام ناید آسان جهد خواهد و احتمام کوشش بسیار باید هر زمان تا به آزادی رسیم ای دوستان خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد تقریبا تقریباً قبل از آنکه میجر آن را تمام کند حیوانات داشتند سرود را با خود زمزمه میکردند. ذهنترین آنها هم آهنگ و چند کلمه از آن را یاد گرفته بود. زرنگ مثل خوب و سگها ظرف چند دقیقه تمام آن را از برداشتند. بعد از چند بار تمرین حیوانات با شور و حال هم نوا با هم سرود حیوانات انگلستان را خواندند. آنقدر از خواندن این سرود سرمست شده بودند که پنج بار دیگر هم پشت سر هم آن را خواندند و اگر ولشان می کردند تا صبح به خاندن ادامه میدادند. اما آقای جانز از این هیاهو بیدار شد و فکر کرد روباهی وارد مزرعه شده است تفنگش را از گوشه اتاق خواب برداشت و در تاریکی شلیک کرد گلوله ها به دیوار آغال برخورد کردند و جلسه ی حیوانات فورا تعطیل شد هر کدام از حیوانات به خوابگاه خود خزید و مسره بلافاصله به خواب را. دوم. سه شب بعد میجر پیر در خواب و در کمال آرامش درگذشت. جسدش را کنار باغ دفن کردند اوایل ماه مارس بود سه ماه بعد به فعالیت های پنهانی گذشت سخنان میجر پیر باعث شده بود حیوانات باهوشتر مزرعه نگاه جدیدی به زندگی پیدا کنند آنها نمیدانستند. شورشی که میجر پیر پیش بینی کرده بود، چه زمانی روی خواهد داد؟ آیا اصلا عمر آنها کفاف می دهد که شورش را به چشم خود ببینند؟ به هر حال وظیفه خود می دانستند که برای شورش آماده شوند. کار آموزش و سازماندهی حیوانات به خوک ها سپرده شد که ظاهرا باهوشتر از بقیه بودند. برجستهترین آنها دو خوک نر به نامهای اسنوبال و ناپلون بودند که آقای جانز آنها را برای فروش پرورش داده بود. ناپل آن یک خوک نر بزرگ و تاند خوی برک شایری بود. سخنران خوبی نبود. اما به این مشهور بود که با زور حرفش را به کرسی می نشاند. اسنوبال خوکی سرزنده، سخنور و نوآور بود. اما قدرت و نفوز ناپل آن را نداشت. بقیه خوکهای مزرعه پرواری بودند. بین آنها اسکویلر، از همه مشهورتر بود خوکی فربه و کوچک با گونه های گرد دائما پلک میزد، حرکاتش فرز و سری بود و صدای زیری داشت سخنور چیره دستی بود وقتی در بحث به مسائل دشوار می رسید، با حرکات حساب شده و تکانهای دمش بالاخره طرف را قانع می کرد می گفتند اسکویلر قادر است سیاه را جای سفید قالب کند این سه نفر آموزه های میجر را به صورت یک نظام فکری در آورده بودند و به آن حیوانگرائی می گفتند. هفته چند بار بعد از اینکه آقای جونز به خواب می رفت، در آغل جلسات مخفیانه برپا می کردند و اصول گرایی را برای بقیه تفسیر می کردند. در ابتدا با حماقت و بی انگیزگی بعضی از حیوانات روبرو شدند. بعضی از حیوانات از احساس مسئولیت و وفاداری به آقای جانز حرف می زدند و او را ارباب خطاب می کردند. یا حرفهایی از این قبیل می زدند. آقای جانز به ما غذا میده و اگه نباشه از گرسنگی می میریم. دیگران سوالاتی از این دست می پرسیدند. چه اهمیتی داره که بعد از مرگ ما چه اتفاقی میافته؟ یا شورش به هر حال اتفاق میافته چه فرقی می کنه که ما براش تلاش کنیم یا نه و خوک‌ها بسیار تلاش می‌کردند تا به آنها بفهمانند که این افکار خلاف روح مکتب حیوانگرایی است. ترین سوالات را مولی مادیان سفید می‌پرسید. اولین سوالی که از اسنوبال پرسید این بود: بعد از شورش باز هم قند خواهیم داشت؟ اسنوبال با قاطعیت پاسخ داد: نه، ما وسایل ساختش رو تو این مزرعه نداریم. به علاوه، تو به قند نیازی نداریم. هر چقدر که بخوای جو و یونجه هست؟ مالی پرسید اجازه دارم روبان به یالم ببندم؟ اسنوبال جواب داد رفیق اون روبان ها نشانه بردگی توه نمیفهمی که ارزش آزادی خیلی بیشتر از اون روبان هاست؟ مالی سری به نشانه تایید تکان داد. اما به نظر نمی رسید قانع شده باشد کار خوک ها برای خونسا کردن توتعه های کلاق اهلی مزرعه از این هم سخت‌تر بود مزز که حیوان دستاموز مخصوص آقای جونز بود یک جاسوس و خبرچین به حساب می‌آمد که در سخنوری هم دستی داشت او مدعی بود سرزمین اسرارآمیزی به نام شیر و اصل وجود دارد که همه ی حیوانات بعد از مرگ به آنجا می روند. مزز می محل این سرزمین توی آسمان اندکی بالاتر از ابر در این سرزمین هفت روز هفته تعطیل است و در تمام فصلهای سال شبدر و یونج و شیرینی به وفور موجود است. حیوانات از مازز متنفر بودند چون هیچ کاری نمی کرد و فقط داستان سره هم می کرد. اما بعضی از آنها به این سرزمین اسرارآمیز اعتقاد پیدا کرده بودند. خوک ها با آنها بسیار بحث کردند تا بپذیرند که چون این سرزمینی وجود خارجی ندارد. بین آنها باکسر و کلوور بیش از دیگران به شورش باور داشتند. وقتی خوکها را به عنوان معلم خود پذیرفتند، تعالیم آنها را با دقت فرا می گرفتند و طی بحث های ساده به دیگران یاد میدادند. به هیچ وجه از شرکت در جلسات مخفیانه آقل قفلت نمی رهبری خواندن سرود حیوانات انگلیس هم با کلوور و باکسر بود. جلسات همیشه با خواندن این سرود پایان می شورش خیلی زودتر و آسانتر از آنچه فکر می کردند به وقوع پیوست آقای جونز در سالهای گذشته کشاورز موفقی به حساب می آمد. اما این روزها پشت سر هم بد می آورد. بعد از اینکه در یک دادخواهی خسارت مالی وحشتناکی متحمل شد ناامیدی زندگیش را فلج کرد بیش از حد الکول می نوشید تمام روز روی یک صندلی. توی آشپزخانه خانه مینشست روزنامه میخوااند الکل می, نشست, روز نمه می, خاند, الکول می نوشید و گهگاه تکه های نان را در آبجو خیس میکرد و به خورده مزز میداد. کارگرانش تنبل و دقر شده بودند و زمینها پر از اللف های هرز. سقف ساختمان نیاز به تعمیر داشت حسارها هم خراب شده و حیوانات گرسنه بودند. ماه جوان از راه رسید فصل برداشت یانجه بود شب جشن تابستانی که امسال با روز شنبه مصادف شده بود آقای جانز به ویلیندون رفت و آنقدر در میکده شیر سرخ الکل نوشید که سیاه مست شد و تا ظهر روز یک شنبه به خانه برنگشت. نگشت کارگرانش صبح زود گاوها را دوشیدند و رفتن دنبال شکار خرگوش در نتیجه قضا دادن به حیوانات از یادشان رفت آقای جانز بعد از رسیدن به خانه در حالی که روزنامه روی صورتش افتاده بود روی مبل به خواب رفت. شب از راه رسید و حیوانات هنوز گرسنه بودند. بیشتر از این نمیتوانستند طاقت بیاورند. یکی از گاوها با شاخ در انبار را شکست و همه حیوانات رفتند داخل و شروع به خوردن قلات کردند. وقتی آقای جونز بیدار شد و او از این قرار دید به همراه چهار کارگرش به طرف انبار هجوم بردند و شروع کردند به شلاق زدن حیوانات حیوانات گرسنه این را دیگر نمیتوانستند تحمل کنند بنابراین بدون برنامه قبلی به آقای جونز و کارگرانش حمله کردند آقای جونز و افرادش ناگهان خود را از همه طرف زیر شاخ و سوم حیوانات دیدند اوضاع از کنترلشان خارج شده بود تا حالا چنین رفتاری از حیوانات ندیده بود حیواناتی را که هر کاری دوست داشتند با آنها می کردند و کتکشان می زدند، یک بار شورش کرده بودند. آقای جونز و افرادش که از این آشوب جا خورده بودند و فکرشان کار نمی کرد تا به مقاومت از دست دادند و پا به فرار گذاشتند. یک دقیقه بعد آنها در حال فرار به سمت جاده بودند و حیوانات پیروز مندانه در تعقیب آنها. خانم جونز که از پنجره اتاق خواب شاهد ماجرا بود، با عجله وسایلش را جمع کرد و توی خورجینی ریخت و از راه دیگر از مزرعه فرار کرد. مزز هم در حالی که بلند بلند قار قار دنبالش رفت. از آن طرف، حیوانات آقای جونز و کارگرانش را از مزرعه بیرون کرده و دروازه را پشت سرشان بسته بودند. به این ترتیب، قبل از اینکه خودشان هم بفهمند، شورش به وقوع پیوسته بود. جونز را بیرون انداخته بودند و حالا، مزرعه مال آنها بود. برای چند دقیقه اول، حیوانات باورشان نمیشد که به چنین پیروزی مهمی یافتند اولین کارشان این بود که دور تا دور مزرعه را بگردند تا مطمئن شوند هیچ آدمی زادی در مزرعه باقی نمانده است. بعد، به سمت ساختمان ها رفتند تا آخرین آثار باقی مانده از سلطه منفور جونز را از بین ببرند. در یراخ خانه را که در انتهای استبلها بود، شکستند و وارد شدند. دهنه ها، حلقه های بینی، زنجیر سگها ها و چاغوهایی که جونز با آنها بیرحمانه خوک ها و بره ها را اخته میکرد همه در چاه ریخته شدند. در حیات آتشی افروخته و همه ی ها را سوزاندند. افسارها، ها، چشم، ها، و توبره ها را هم در آتش انداختند. حیوانات وقتی شلاغ ها را در آتش دیدند، به شادی و جست و خیز پرداختند. اسنوبال روبان از را هم درون اون آتش انداخت. روبانهایی که موقع فروش محصولات در بازار، یال و دم از را به آنها تزیین می کردند. اسنوبال گفت روبان هم مثل لباسه و لباس مال آدمیزاده. همه حیوانات باید برهنه باشند. باکسر با شنیدن این حرف رفت و کلاه حسیری کوچکش را که برای محافظت از گوشهایش در برابر مگس ها بر سر میگذاشت آورد و توی آتش انداخت. طولی نکشید که حیوانات تمام آثار به جامانده از آقای جونز را از روی زمین محف کردند. بعد ناپل آن آنها را به انبار برد و به هر یک معادله دو برابر جیره معمول قله داد به هر کدام از سگها هم دو تا بیسکوید رسید. بعد با هم هفت بار سرود حیوانات انگلستان را از اول تا آخر خواندند و طوری به خواب رفتند که انگار تا حالا نخوابیده بودند. صبح بیدار شدند و ناگهان یادشان آمد که چه اتفاق بزرگی افتاده است. همه با هم به سمت چراگاه دویدند. کمیان طرفتر از چراگاه تپهای وجود داشت که به کل مزرعه مشرف بود. حیوانات بالای آن رفتند و کل مزرعه را زیر نور آفتاب صبحگاه از نظر گذراندند. بله، مزرعه مال آنها بود. تمام چیزی که میدیدند به آنها تعلق داشت. از این فکر به هیجان آمده شروع کردن به جست و خیز و جفتک پرانی. در میان قطرات شبنم قلد زدند، از علف تازه تابستان خوردند، با پاهایشان خاک تازه را به هم زدند و از بوی خوش آن مست شدند. بعد به گشت و گذار در مزرعه و بررسی آن پرداختند. بدون آنکه حرفی بزنند، با تحسین به زمین شخم زده، یونجزار، استخر و هزار نگاه کردند. انگار تا حالا اینها را ندیده بود. هنوز هم باورشان نمیشد که همه اینها متعلق به خودشان است بعد سراغ خانه جونز رفتند آهسته رفتن دم در اینجا هم مال خودشان بود اما میترسیند وارد آن شوند بعد از چند لحظه اسنوبال و ناپل آن در را با ضربه شانه هایشان باز کردند و حیوانات به صف وارد خانه شدند با احتیاط کامل حرکت میکردند که مبادا چیزی را خراب کنند پاورچین پاورچین از اتاقی به اتاق دیگر می رفتند. می ترسیدند بلند حرف بزنند. با هم نجوا می کردند. ناباورانه به اشیای لوکس خانه خیره شده بودند. تخت خوابهایی که تشکهایی از پر داشتند. آینه ها، مبلی که روکشش از موی اسب بود. فرش، عکس ملک ویکتوریا بالای پیش بخاری و... وقتی از پله‌ها پایین آمدند متوجه شدند که خبری از مولی نیست. برگشتند و او را در یکی از اتاق خواب ها پیدا کردند. مولی یکی از روبان‌های آبی خانم جانز را از روی میز آرایش برداشته و روی شانه‌اش انداخته بود و با حالتی احمقان خود را جلوی آینه ورانداز می‌کرد. حیوانات او را سرزنش کردند و بیرون آمدند. چندتا ران نمکسود شده خوک هم در آشپزخانه آویزان بود. که آنها را هم بردن بیرون و دفن کردند بشکه آبجو هم با لگت های باکسر شکسته شد به وسایل دیگر خانه دست نزدند با هم توافق کردند که از خانه جانز به عنوان موزه استفاده کنند و هیچ حیوانی در آن زندگی نکنند حیوانات صبحانهشان را خوردند و بعد اسنوبال و ناپلئون آن دوباره آنها را جمع کردند اسنوبال گفت رفقا ساعت شش و نیمه و روز درازی رو پیش رو داریم. امروز برداشته یونجه رو شروع می کنیم. اما قبل از اون باید به یه نکته دیگه توجه داشته باشیم. خوک ها آشکار کردن که طی سه ماه گذشته با استفاده از کتاب املای قدیمی فرزندان جانز، خواندن و نوشتن آموختند. آنها کتاب را بین آتش ها پیدا کرده بودند. ناپلئون یکی را فرستاد تا رنگ سیاه و سفید بیاورد و به سمت دروازه ورودی رفت. اسنوبال که مهارت بیشتری در نوشتن داشت، قلمو را برداشت و عنوان مزرعی مانر را از بالای دروازه پاک کرد و به جایش نوشت مزرعه حیوانات از این به بعد این نام جدید مزرعی آنها بود بعد به سمت ساختمان ها رفتند نردبانی را به دیوار آغال بزرگ تکیه دادند اسنوبال و ناپل اون توضیح دادند ظرف سه ماه گذشته با مطالعاتی که داشتند موفق شدهاند اصول حیوانگرایی را در هفت فرمان خلاصه کنند. این هفت فرمان روی دیوار نوشته می شود و همه ی حیوانات باید تا آخر عمر مطابق با آن زندگی کنند. اسنوبال به زحمت از نردبان بالا رفت تا هفت فرمان را روی دیوار بنویسد. اسکویلر چند پله پایین تر سطل رنگ را نگه داشته بود. فرمانها با رنگ سفید روی دیوار قیرندود نوشته شدند. طوری از فاصله سیمتری هم خانده می شدند. هفت فرمان یک هر موجود دو دشمن است دو هر چهار پا یا دو پای بالداری دوست است سه هیچ حیوانی نباید لباس بپوشد چهار هیچ حیوانی نباید روی تخت خواب بخوابد پنج هیچ حیوانی نباید الکول بنوشد. شش. هیچ حیوانی حق ندارد حیوان دیگری را بکشد. هفت. همه حیوانات با هم برابرند. جملات تمیز و خانا نوشته شدند و غیر از یکی دوتا غلط املاعی جزئی جزئی مشکل دیگری وجود نداشت. اسنوبال با صدای بلند آنها را برای همه خوان همه حیوانات به نشانه موافقت کامل سرتکان دادند و آنها که باهوش‌تر بودند شروع به حفظ کردن فرمانها کردند اسنوبال قلمو را پرت کرد و گفت رفقا پیش به سوی زمین یونجه بیاین کار برداشت یونجه رو سریعتر از جونز و کارگرهاش به پایان برسونیم اما در این لحظه گاوها که به نظر ناراحت میرسیدند با صدای بلند ماما ما کردند 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانهایشان داشت منفجر می شد بعد از کمی فکر کردن خوگها ها چند سطر آوردند و با موفقیت شیر گاوها را دوشیدند سمهایشان برای این کار خوب عمل می کرد به زودی پنج سطر شیر چرب کف کرده آنجا بود که همه حیوانات با علاقه به آنها نگاه می کردند یکی گفت شیرها رو باید چه کار کنیم؟ یکی از مرخ ها گفت گاهی غذای ما رو با شیر مخلود می کرد و بهمون همون می داد. ناپل اون بین حیوانات و سطل های شیر قرار گرفت و فریاد زد رفقا شیر مهم نیست الان برداشت محصول از همه چیز واجب تره رفیق اسنوبال شما رو راهنمایی خواهد کرد من هم چند دقیقه دیگه, دیگه میام. رفقا به پیش یونجه ها منتظرند حیوانات به سمت زمین یونجه رفتند و کار برداشت را آغاز کرد اما شب که برگشتند متوجه شدند اثری از سطرهای شیر نیست. حیوانات برای برداشت یونجه حسابی تلاش کردند و عرق ریخدند اما ارزشش را داشت چون برداشت محصول مبفقیت هامیستر از چیزی بود که فکرش را می کردند. گاهی کار سخت می شد ابزار کار برای آدم ها ساخته شده بود نه حیوانات اشکال دیگر این بود که حیوانات نمی توانستند روی دو پا و کار کنند اما خوک ها از این حرفها بودند و برای هر مشکلی راه حلی می آفدند. از وجب به وجب مزرعه را می شناختند و کار چیدن محصول و شنکشی را حتی بهتر از جانز و کارگرهایش انجام می دادند. کار نمی کردند. فقط دیگران را رهبری و بر کار آنها نظارت می کردند. به دلیل اینکه دانش خوک از بقیه بیشتر بود، واضح بود که آنها باید کار رهبری را به عهده بگیرند باکسر و کلوور خود را به ابزار درو و شنکشی میبستند بستند. البته این روزها نیازی به افسار و دهنه نبود. و با گام های اوستوار زمین کشاورزی را دور می زدند. خوچی هم پشت سر آنها حرکت می کرد و در موقع لزوم می گفت هین رفیق یا هش رفیق. همه یه حیوانات در کار برداشت یونجه مشارکت می کردند. حتی تا مرغها و مرغابی هم زیر گرمای آفتاب کار میکردند و سااقه های کوچک را با منقارهایشان جمعآوری مینمودند. حیوانات کار برداشت را در دو روز به پایان رساندند که کمتر از مدت زمان معمول برداشت جانز و کارگرانش بود. به علاوه میزان محصول نیز بیشتر از همیشه بود ذره از محصول هدر نرفته بود مرها و مرغابیها با چشمهای تیز بینشان کوچکترین ساغه را هم جمع کرده بودند و هیچ حیوانی زره از محصول ندستیده بود. تمام تابستان کار مزرعه با دقت پیش میرفت. حیوانات خیلی خوشحال بودند و هر لغمه از غذا را با لذت میخوردند چون مال خودشان بود و حاصل دست رنج خودشان. دیگر خبری از جانز نبود که بخواهد با بی میلی ناچیز به آنها بدهد. حالا که مزرعه از وجود انگلوار آدمی آدمی‌زاد خالی شده بود، حیوانات می توانستند غذای بیشتری بخورند. با آنکه در کار مزرعهداری تجربه چندانی نداشتند، اوقات فراغتشان بیشتر شده بود. با سختی های فراوانی مواجه شدند. مثلا بعد از برداشت محصول قله، چون در مزرعه ماشین خرمن کوب نداشتند، ناچار شدند به روش سنتی کاه را از قله جدا کنند. به این صورت که آنها را لگت کرده و بعد فوت کنند تا کاه جدا شود. اما فکر خوکها و نیروی ازولانی باکسر و کلوور هر مشکلی را حل می کرد. همه باکسر را تحسین می کردند. باکسر زمان جونز هم پرکار بود. اما حالا به اندازه سه اسب کار می کرد. بعضی روزها تمام کار مزرعه روی شانه های توانمند او می افتاد. از صبح تا شب جان می کند و هر جا کار سختی وجود داشت باکسر حاضر بود. به جوجه خروس گفته بود صبحها او را نیم ساعت زودتر از بقیه بیدار کند تا بتواند قبل از شروع کار معمول روزانه داوطلبانه کارهای لازم را انجام دهد. پاسخ او به مشکلات و موانع این بود: من بیشتر کار خواهم کرد. او این حرف را شعار خود کرده بود. هرکس کس به اندازه ظرفیتش کار میکرد. مرغها و مرغابی ها حجم آوری قلاتی که این طرف آن طرف ریخته شده بود حدود دویست کیلوگرم قله جمع کرده بودند هیچ کس نمیکرد نمی‌کرد هیچ کس سر سهمش قر نمیزد. دعوا گاز گرفتن و حسادتهای قبلی همه از بین رفته بود هیچ کس از زیر کار در نمیرفت البته تقریبا هیچ کس مولی صبح دیر می‌داد و عصر هم به بهانه اینکه ریگ توی سومش رفته زودتر از بقیه کار را تعطیل می کرد. رفتار گربه هم عجیب و غریب بود. موقع کار غیبش می زد و موقع قضا یا وقتی که کار تمام شده بود سر و کلش پیدا می شد. انگار که آب از آب تکان نخورده است. البته همیشه چنان عضو و های عالی می آورد و با احساس خرخر می کرد که غیر ممکن بود کسی به حسن نیتش شک کند. بنجامین اولاغ پیر بعد از شورش هیچ تغییری نکرده بود. کارش را آهسته و پیوسته مثل زمان جونز انجام میداد. گر نمیزد و کار اضافی داوطلبانه هم انجام نمیداد. درباره شورش و نتای نظری نمیداد. وقتی از او میپرسیدند که آیا حالا از زمان جونز خوشحال تر نیست، فقط جواب میداد. اولاغ ها عمری طولانی دارند. هیچ کدوم از شما تا حالا؟ الاخ مرده ندیدین دیگران مجبور بودند به همین جواب مرموز قانع شوند یک شنبه ها کار نبود یک ساعت دیرتر از زمان معمول صبحانه می خوردند بعد از صبحانه مراسمی داشتند که هر هفته برگزار می شد اول پرچم را بالا می بردند اسنوبال توی یراخانه یک رومیزی سبز کهنه که مال خانم جانز بود پیدا کرده بود و روی آن با رنگ سفید تصویر یک سم و یک شاخ کشیده بود. صبح های یک شنبه توی حیات جلوی خانه پرچم را بالا می بردند. اسنوبال توضیح داد که رنگ سبز پرچم نماد زمین های سرسبز انگلستان است و تصویر سم و شاخ بیانگر جمهوری آینده حیوانات، که بعد از برانداختن نسل بشر برپا خواهد شد بعد از بالا بردن پرچم همه حیوانات برای جلسه مجمع به آغر می رفتند. در آنجا کارهای هفته بعد برنامه ریزی و تحلیل می شد و درباره آن تبادل نظر می کردند. البته فقط خوک نظر می دادند و بقیه حیوانات فقط یاد گرفته بودند رأی بدهند اسنوبال و ناپل آن در بحث خیلی فعال بودند اما هیچ وقت با هم توافق نداشتند مثلا وقتی بنا شد چراگاه کوچک پشت باغ را به حیوانات بازنشسته اختصاص دهند بحث شدیدی سر تعیین سن بازنشستگی حیوانات مختلف در گرفت در پایان جلسه سرود حیوانات انگلستان خوانده میشد. بعد از ظهر هم به استراحت و تفریح میگذشت. خوک‌ها یراخانه را قرارگاه خود کرده بودند در آنجا شبها به مطالعه درباری آهنگری، نجاری و دیگر فنون مورد نیاز می‌پرداختند. مطالعات از روی کتاب‌های انجام می‌شد که در خانه پیدا کرده بودند. اسنوبال سرگرم سازماندهی حیوانات به گروه‌هایی بود که آنها را کمیته‌های حیوانی می‌نامید. به طرزی خستگی ناپذیر روی این موضوع کار می‌کرد. او این کمیته‌ها را تشکیل داده بود. کمیته تولید تخم مرغ برای مرغها، کمیته دمتمیزان برای گاوها، کمیته بازآموزی رفقای وحشی که هدفش اهلی کردن موشها و خرگوشها بود. جنبش پشم سفید ترها برای گوسفندان و کمیته های مختلف دیگر. به علاوه، کلاسهایی برای آموزش خاندن و نوشتن دایر کرده بود. در کل این پروژه ها با شکست مواجه شدند. مثلا تلاش برای اهلی کردن حیوانات وحشی تقریبا بلا فاصل شکست خورد رفتار حیوانات وحشی تغییری نمی کرد و مثل قبل بود و اگر با آنها دوستانه رفتار می شد و سو استفاده می کردند. گربه به کمیته بازآموزی پیوست و چند روزی فعالیت مستمری در این کمیته کرد یک روز او را دیدن که روی بام نشسته و با گنجه های دور از دسترسش حرف می به آنها می گفت حالا دیگر همه حیوانات با هم دوستند و گنجشکها اگر بخواهند میتوانند روی پنجه او بنشینند اما گنجشکها همچنان فاصله خود را با گربه حفظ میکردند برگزاری کلاس‌های خواندن و نوشتن با موفقیت همراه بود با رسیدن پاییز تقریبا همه حیوانات تا حدی باسواد شده بودند خوکها به طور کامل خواندن و نوشتن را یاد گرفته بودند سگها خوب میخواندند اما غیر از هفت فرمان به خواندن مطالب دیگر علاقه ای نداشتند. موریل باز مزرعه بهتر از سکها می خاند. گاهی شبها تکه های روزنامه را رو از توی آشغالها پیدا می کرد و برای بقیه می خاند. بنجامین به خوبی خوکها می خاند. اما هیچگاه از این توانایی خود بهره نمی برد. می گفت چیزی وجود ندارد که ارزش خاندن داشته باشد. کلوور همه ی حروف را یاد گرفت. اما نمی توانست کلمات را کنار هم بگذارد و جمله بسازد. باکسر از حرف ت جلوتر نرفت. باسم بزرگش روی خاک، الف، ب، پ و ت را می نوشت. با گوش های آویزان به آنها خیره می شد. کاکلش را تکان میداد و تمام سعیش را می کرد که بقیه حروف را به خاطر بیاورد. اما موفق نمی شد. یک بار هم که سه، جیم، چه، و را یادش آمد از الف تا ت را فراموش کرد. بالاخره تصمیم گرفت به همان چهار حرف اول قناعت کند و قید بقیه را بزند. بنابراین روزی دوبار آن چهار حرف را تمرین می کرد که یادش نرود. مولی فقط حروف اسم خودش را یاد گرفت و تمایلی به یادگیری بقیه ی حروف نشان نداد. با تکه های ریز چوب حروف اسم خودش را می نوشت. آنها را با گلد تزئین می کرد. و رضایتمندان دور اسمش میچرخید بقیه حیوانات از حرف الف جلوتر نرفتند همچنین مشخص شد حیوانات کنزهنتر مثل گوسفندان، مرغها و مرغابیها حتی از پس حفظ کردن هفت فرمان هم بر نیامدند. اسنوبال پس از مدتی اندیشیدن گفت که هفت فرمان را میتوان در یک اصل کلی خلاصه کرد که بیانگر نظام فکری حیوانگرایی باشد چهار پا خوب، دو پا بد. اسنوبال افزود هر که از این اصل پیروی کند، از گزند بشر محفوظ خواهد بود. پرنده ها در ابتدا اعتراض کردند. چون آنها هم ظاهرا دو پا بودند، اما اسنوبال به آنها ثابت کرد که اینطور نیست. رفقا، بال پرنده برای حرکت نه برای کارهای پلید. بنابراین باید به عنوان پا در نظر گرفته بشه. چیزی که آدمیزاد رو از ما متمایز میکنه دستهاشه دستهایی که با اونها کارهای ناپسند انجام میده پرندهها خیلی از حرفهای سر سردر نیاوردند اما توضیحش را قبول کردند. بعد همه شروع کردند به یادگیری اصل جدید چهار پا خوب دو پا بد را بالای هفت فرمان با حروف درشتتر نوشتند گوسفندان خیلی از آن خوششان آمده بود و اغلب وقتی روی زمین لم می دادند، آن را بعبه می کردند. چهار پا خوب، دو پا بعد، چهار پا خوب، دو پا بعد. ساعت‌ها آن را تکرار می و از این کار خسته نمی شدند. ناپل اون به کومیته های اسنوبال نداشت و معتقد بود آموزش کودکان واجب تر از بزرگسالان است. بعد از برداشت یونجه، جسی و بلوبل صاحب نه طولی سالم و قوی شدند. به محض اینکه آنها را از شیر گرفتند، ناپل اون آنها را از مادرشان گرفت و گفت که خودش شخصا مسئولیت آموزش آنها را بر عهده خواهد گرفت. ناپلئون طول سگ‌ها را به اتاقک زیر شیروانی برد که فقط میشد با نردبان از یراخانه خانه به آنجا رفت. او ها را به کلی از بقیه حیوانات جدا کرد، طوری که خیلی زود فراموش کردند چنین توله‌هایی هم وجود داشتند. راز گم شدن سطل شیر هم اندکی بد آشکار شد. خوک ها شیر را با غذای خودشان مخلود می کردند و میخوردند. سیب نوبر داشتن می رسیدند. باد تعدادی از سیب را از روی درختان به زمین انداخته بود. حیوانات فکر میکردند سیب ها به طور مساوی بینشان تقسیم می شود اما یک روز دستور رسید که سیب را جمع کرده و برای استفاده خوک ها به یرا خانه ببرند بعضی از حیوانات اعتراض داشتند، اما راه به جایی نبردند همه خوک ها سر این مسئله توافق داشتند، حتی اصنابال و نوپلون. اسکویلر را فرستادند تا توضیحات لازم را به بقیه بدهد. اسکویلر فریاد زد. رفقا، امیدوارم فکر نکنین ما خوک ها از روی خودخواهی این کار را کردیم. خیلی از ما در واقع از شیروسی بدمون میاد. خود من از شیروسی متنفرم انها هدف ما از این کار فقط اینه که بدنمون رو سالم نگه داریم رفقا از نظر علمی ثابت شده که شیر و سیب برای سلامت خوک ها ضروریه کار ما خوک ها کار فکریه مدیریت و سازماندهی این مزرعه به عهده ماست ما شب و روز برای تأمین رفاه و آسایش شما کار میکنیم به خاطر شماست که شیر و سیب میخوریم میدونین اگه ما خوکها نتونیم وزیف رو را درست انجام بدیم چه اتفاقی میافته؟ جونز بر می گرده. بله جونز بر می گرده. مطمئن باشین رفقا بین شما کسی نیست که خواهان بازگشت دوباره جونز باشه درسته؟ اگر فقط یک چیز بود که همه حیوانات رویش توافق داشته باشند این بود که نمیخواستن جونز دوباره برگردد با توضیحات اسکویلر دیگر حرفی باقی نماند اهمیت سلامت خوک ها کاملا روشن شده بود بنابراین بدون بحث بیشتر موافقت شد که شیر و سیب‌هایی که باد انداخته بود همچنین محصول اصلی سیب وقتی که رسید فقط متعلق به خوکها باشه. مصل چهارم تا آخر تابستان وقایع مزرعه حیوانات همه جا پخش شد. هر روز اسنوبال و ناپلئون آن کبوترها را به مزارع مجاور می تا حیوانات دیگر را از وقوع شورش باخبر کنند و سرود حیوانات انگلستان را به آنها یاد بدهند. آقای جانز اکثر اوقاتش را در میخانه شیر سرخ در ویلینگدون سپری می کرد. با دیگران درباره بیدادی که در حقش شده بود حرف میزد. اینکه چندتا تا حیوان به درد نخور او را از املاکش بیرون کرده بودند. بقیه کشاورزان ظاهرا با او هم دردی نمی‌نمودند اما عملا کمکی به جونز نمی‌کردند. در باتن به این فکر بودند که چطور از وضعیت نابسامان جونز به نفع خود استفاده کنند. وقت با آقای جونز یار بود که مالکان دو مزرعه مجاور رابطه خوبی با هم نداشتند. یکی از آن دو مزرعه فاکس وود نامیده میشد. شد. مزرعه وسیعی که خوب از آن نگهداری نشده بود. درختهایش هرست نشده بودند و چراگاه و بوتزارهایش از بین رفته بودند. مالک آن کشاورز بی بندی بود که بسته به فصل به ماهیگیری یا شکار می پرداخت. مزرعه دیگر که پینچ فیلد نامیده میشد شد کوچکتر بود. اما از آن بهتر نگهداری شده بود. مالک آن آقای فردریک بود. مردی خشن و در عین حال موزی که در داد و ستد بسیار سخت گیری می کرد و دائما درگیر دادخواهی و دادگاه بود این دو چنان از یکدیگر متنفر بودند که بعید به نظر میرسید سر ای به توافق برسند حتی در دفاع از منافع خودشان با این وجود شورش در مزرعه حیوانات هر دوی آنها را وحشت زده کرده بود و نگران بودند که حیوانات آنها نیز دست به شورش بزنند در ابتدا به این فکر می خندیدند که حیوانات بتوانند به تنهایی از عهده مدیریت مزرعه برایند. میگفتند حیوانات دو هفته بیشتر دوام نخواهند آورد. شایه پراکنی می که بین حیوانات مزرعی مانر، اصرار داشتند که آن را مزرعی مانر بنامند، نه مزرعی حیوانات. دائما جنگ و دعواست و به زودی از گرسنگی خواهند موید. از فساد و شرارتی حرف میزدند که در مزرعی حیوانات در جریان بود. می گفتند در آنجا حیوانات هم نوع خود را میخورند یکدیگر را با نعل داغ شکنجه می دهند و از جفتهایشان به طور مشترک استفاده می کنند. می گفتند اینها به دلیل این است که شورش حیوانات بر خلاف قوانین طبیعت است. با این همه کسی به طور کامل این داستانها را باور نکرد شایعات مربوط به مزرعه حیوانات مبهم و تحریف شده همچنان پخش میشد و موجی از شورش ها را در کل منطقه ایجاد کرده بود. گاوهایی که همیشه رام بودند وحشی شده بودند. گوسفندها پرچین را خراب کرده و شب را هرامی خوردند. گاوهای ماده های شیر را معلق می کردند. اسبهای شکاری از روی مانه نمی پریدند و سوار خود را به زمین می زدند. از همه مهمتر آهنگ و کلمات سرود حیوانات انگلستان را همه یاد گرفته بودند و این سرود با سرعت حیرت انگیزی در حال گسترش بود. این سرود آدمها را به شدت خشمگین میکرد. میگفتند نمیفهمند چرا حیوانات چون این سرود مزخرفی را میخواند. هر حیوانی که این سرود را میخواند در جا شلاق میخورد. با این وجود آدمها نمیتوانستند جلوی انتشار این سرود را بگیرند. توکاها در بوت زارها آن را می و کبوترها روی درختان ناروند حتی زرواهنگ چکش آهنگران و زنگ کلیساها هم از آن تاثیر پذیرفته بود با شنیدن این سرود لرزه بر اندام آدمها میافتاد و میترسیدند که سرنوشتی مشابه سرنوشت آقای جونز در انتظارشان باشد اوایل ماه اکتبر بود حیوانات محصولات قله را درو کرده و مقداری از آنها را خرمن کوبی کرده بودند دسته ای از کبولترها سراسیمه از آسمان فرود آمدند و خبر حمله آدمها را به حیوانات مزرعه دادند. جونز به همراه مالکان و کارگران مزرعه های فاکس وود و پینچ به سمت مزرعه می آمدند. همه آنها چماق داشتند غیر از جونز که تفنگ بدهست جلوتر از بقیه حرکت میکرد. واضح بود که آمدند مزرعه را از حیوانات پس بگیرند. حیوانات از قبل انتظار چنین حمله را داشتند. و خود را برای رویارویی با آن آماده کرده بودند اسنوبال که کتاب تاکتیک های جنگی جولیوس سزار را خوانده بود فرماندهی عملیات تدافعی را بر داشت او دستورات لازم را صادر کرد و بعد از مدت کوتاهی هر حیوان سر جای تعیین شده خود مستقر شد وقتی آدمها به ساختمان‌های مزرعه نزدیک شدند اسنوبال فرمان حمله اول را صادر کرد کبوترها که تعدادشان 35 تا بود بالای سر آدمها به پرواز در آمدند و فضولاتشان را رو روی سران ها خالی کردند. آدمها حواسشان به پاک کردن فضولات بود که ناگهان غازها از پشت بوتها حمله کردند و بیرحمانه پای آنها را نوکی زدند. البته این فقط یک زد و جزئی برای ایجاد بینظمی در سپاه دشمن بود. آدمها به راحتی با چوب و چماق گازها را از خود راندند. در این لحظه اسنوبال فرمان حمله دوم را صادر کرد. موریل، بنجامین، همه گوسفندان و پیشاپیش آنها اسنوبال به آدمها حمله کردند. بنجامین با سمهای کوچکش به آدمها ضربه میزد، اما این بار هم آدمها با استفاده از چماق و چکمه های سنگین میخدارشان حیوانات را پراکنده کردند. اسنوبال فرمان عقب نشینی داد و حیوانات به سمت حیات مزرعه عقب رفتند. آدمها فریاد پیروزی سر دادند و با بینظمی حیوانات را دنبال کرد. این درست همان چیزی بود که اسنوبال می‌خواست. به محض اینکه وارد حیات شدند، سه اسب، سه گاو و بقیه خوک ها که در گاودانی کمین کرده بودند، از پشت سر به آدمها حمله کردند. خود اسنوبال به جونز حمله کرد. جونز به سوی او شلیک کرد. گلوله پشت اسنوبال را خراشید و یک گوسوند را کشت. اسنوبال بدون لحظه‌ای معطلی وزن 100 کیلویی‌اش را روی جونز انداخت. جونز پرت شد روی کودها و تفنگ از دستش افتاد از همه ترسناکتر باکسر بود که با نعلهای آهنی لگد میزد اولین لگد او به جمجمه جوانکی که در استبل مزرعی فاکس وود کار میکرد اصابت و او را نقش زمین کرد با دیدن این صحنه چند تا از مردها چماغهایشان را انداختند و پا به فرار گذاشتند آدمها وحشت کرده بودند حیوانات داشتن آنها را دور مزرعه دنبال میکردند. شاخ میزدند، لگد میزدند، گاز میگرفتند و حیوانی نبود که به شیوه خاص خودش از آدمها انتقام نگیرد. حتی گربه هم ناگهان از روی بام، روی شانه گاوچرانی پرید و چنگالش را توی گردن او فرو کرد. گاوچران از درد فریاد کشید. همین که باز شد، آدم ها معطل نکردند و پا به فرار گذاشتند. از حیات خارج شده و به سمت جاده دویدند. پنج دقیقه از حملهشان نگذشته بود که با رسوایی از همان راهی که آمده بودند فرار کردند. غازها باز هم از خجالتشان درآمدند و حسابی به پاهایشان نک زدند. همه آدمها فرار کردند جز یکی باکسر توی حیات بالای سر جوانک گاف ایستاده بود و سعی میکرد جوانک را که با صورت روی زمین افتاده بود برگرداند جوانک تکان نمی خود. باکسر با ناراحتی گفت مرده، نمیخواستم این کارو بکنم حواسم نبود که نعلهای آهنی دارم کی باور میکنه که من این کار از قصد نکردم اسنابال که هنوز از زخمش خون میرفت فریاد کشید رفیق لازم نیست دلسوزی کنی، جنگ همینه تنها آدم خوب، آدم که مرده باشه باکسر با چشمانی عشقالود گفت من نمیخوام جون کسی رو بگیرم، حتی جونه آدم رو. یکی گفت مولی کجاست؟ خبری از مولی نبود برای لحظه ای همه ترسیدند که مباد آدمها بلایی سرش آورده یا او را با خود برده باشند بالاخره او را توی استبل پیدا کردند. در حالی که سرش را توی یونجه داخل آخر پنهان کرده بود با شنیدن صدای تفنگ فرار کرده و آمده بود اینجا وقتی حیوانات دوباره به حیات برگشتند خبری از جوانک گافچران نبود ظاهرا نمرده و فقط بیهوش شده بود حالا حیوانات جمع شده بودند و با هیجان درباره شاهکارهایشان در جنگ حرف میزدند. فورا و بدون مقدمه جشن پیروزی را برپا کردند پرچم را بالا بردند و چند بار سرود حیوانات انگلستان را خواندند بعد مراسم باشکوهی برای گوسفندی که جانش را در جنگ از دست داده بود برپا کردند و او را به خاک سپردند سر مزار او درخچهی کاشتند و اسنوبال سخنرانی کوتاهی ایراد کرد. او تأکید کرد که حیوانات باید هر زمان که لازم باشد جان خود را برای مزرعه حیوانات فدا کنند. حیوانات به اتفاق تصمیم گرفتند به اسنوبال و باکسر نشان شجاعت درجه یک شود نشانی برنجی که آن را در یراخ خانه پیدا کرده بودند. بنا شد این نشان شجاعت را یک شنبه ها و روزهای تعطیل به سینه بیاویزند همچنین نشان شجاعت درجه دو به گوسفندی اعطا شد که جان خود را پای دفاع از مزرعه گذاشته بود. درباره اسم جنگ مدتها بحث کردند و سرانجام اسمش را گذاشتند نبرد گاودانی چرا که حمله اصلی از آنجا آغاز شده بود. تفنگ آقای جانز هم روی زمین افتاده بود که تصمیم گرفتند آن را مثل توبخانهای کنار میله پرچم بگذارند و سالی دوبار شلی یک بار شلیک کنند. یکبار 19 اکتبر سالگرد نبرد گاودانی و یک بار در تابستان سال روز پیروزی شورش. وصل پنجم با نزدیک شدن زمستان دردسرهای سرهای مالی بیشتر و بیشتر میشد صبح دیر سر کار می و می گفت که خواب مانده است از دردهای مرموزی شکایت میکرد اگرچه اشتهایش عالی بود و بعید به نظر می رسید مشکل خاصی داشته باشد با بهانه بحانهی که به دست میآورد به سمت استخر میرفت و احمقانه تصویر خود را در آب تماشا می کرد شایعات جدی تری هم درباره او وجود داشت. یک روز در حالی که مالی با خوشحالی توی حیات قدم میزد، با دم بلندش ور میرفت و دسته یونجه را می‌جوید. کلوفر او را به کناری کشید و گفت: مالی، میخوام درباره یه مسئله جدی باهات حرف بزنم. صبح دیدم رفته بودی دم پرچینی که مزرعه ما را از مزرعه فاکس‌وود جدا میکنه. یکی از کارگرهای آقای پیلکینگتون اون طرف پرچینی ایستاده بود. دور بودم." اما مطمئنم داشت بهات حرف میزد. تو بهش اجازه دادی دماغت رو نوازش کنه این چه معنی داره مالی مالی فریاد زد نوازش نکرد من نبودم و بعد پاهایش را با عصبانیت روی زمین کوبید کلوور گفت مالی تو چشمای من نگاه کن و بگو که اون مرد دماغت رو نوازش نکرده مالی بدون آنکه به چشمهای کلوور نگاه کند گفت این حقیقت نداره اون منو نوازش نکرد و بعد به تاخت به سمت زمین های کشاورزی رفت فکری به ذهن کلوور رسید بدون آنکه چیزی به کسی بگوید به استبل مالی رفت و با سمش کاها را کنار زد زیر کاها مقداری قند و چند تا روبان رنگی پنهان شده بود سه روز بعد مالی ناپدید شد تا چند هفته مشخص نشد کجا رفته است تا اینکه کبوترها خبر آوردند، او را آن طرف ویلینگدون دیدند که به یک درشکه قرمز و سیاه بسته شده و جلوی میخانه ای ایستاده است. مرد چاق سرخ روی او را نوازش می و به او قند می است. موهای مولی مرتب و به کاکولش روبان قرمزی بسته شده بود. کبوترها می به نظر می رسد مولی از وضعش رازی است. بنابراین از آن به بعد، حیوانات دیگر چیزی از مولی نگفتند. ماه ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مثل سنگ سفت شده بود و نمی شد روی آن کار کرد. جلسات فراوانی در آغال برگزار شد. خوک ها خود را با برنامه ریزی برای فصل آینده سرگرم می کردند. دیگر همه پذیرفته بودند که خوکها از همه باهوش و سیاستگزاری کلان امور مزرعه را آنها باید انجام دهند. بنابراین تصمیمات خوک ها با بیشترین رأی به می رسید. همه چیز خوب پیش می رفت و تنها مشکل موجود اختلاف نظرهای بیش از حد اسنوبال و ناپل اون بود که در تمام موضوعات با هم مخالف بودند. اگر یکی می گفت جو بکاریم، دیگری می گفت باید چیز دیگری بکاریم. اگر یکی می گفت این زمین برای کشت کلم مناسب است، دیگری می گفت باید در آن چغندر کاشت. هر کدام هم طرفداران خود را داشتند. در نتیجه، بحث های شدیدی ب در جلسات اسنوبال با سخنرانی های تأثیر گزارش نظر همه را جلب می کرد. اما بیرون از جلسات ناپل آن موفق تر بود، خصوصاً گوزفند ها را خوب به سمت خود کشیده بود. گوسفندها وسط حرفهای اسنوبال ناگهان شروع به بعبع کردن شعار چهار پا خوب، دو پا بد می کردند و نمی حرفش را بزند. اسنوبال چند شماره قبلی نشریه کشاورز و دامدار را خوب مطالعه کرده بود که پر بود از طرحهایی برای نوآوری و ایجاد بهبود در موضوعات مربوط به اداره مزرعه. او با تسلط کامل درباره ذکششی، چیدن علف و دفع ضایعات صحبت می کرد. روی طرح پیچیده دیگری هم کار میکرد اینکه، حیوانات هر روز فضولات خود را در جای معینی از زمین‌های کشاورزی دفن کنند تا در نیروی کار سرف جویی شده و مجبور نباشند دوباره کودها را جابجا جا کنند. آن ترهی ارائه نمی‌داد و فقط می‌گفت ترهای اسنوبال راه به جایی نمی‌برند و منتظر است زمان اجرای طرح خودش فرا برسد. ترین اختلاف نظر آنها بر سر ساخت آسیاب بادی بود. کمیان آن از ساختمانها. تپه کوچکی وجود داشت که بلندترین نقطه مزرعه به حساب می آمد. اسنوبال بعد از بررسی مزرعه اعلام کرد که آنجا محل مناسبی برای ساخت آسیاب بادی است. با ساخت آسیاب بادی می توانستند یک دستگاه مولد برق به کار بیاندازند که برای مزرعه برق تالید کند. در نتیجه استبلها را روشن و در زمستان گرم نمایند. همچنین با برق امکان راه اندازی اره برقی، دستگاه خردکن پوشال و چقندر و ماشین شیردوش برقی وجود داشت. حیوانات تا به حال چیزی در این باره نشنیده بودند چون مزرعی آنها به شیوه سنتی اداره میشد و دستگاههایش ابتدایی بودند. حیوانات گوش میکردند و اسنوبال شکل و عمل کرده دستگاههای مختلف را شرح میداد. او میگفت با وجود چنین هایی دیگر لازم نیست به کارهای طاقت فرسا بپردازند و می توانند آسود خاطر بچرند یا با مطالعه و مباحثه سطح فکرشان را بالا ببرند. اسنوبال ظرف چند هفته طرح ساخت آسیاب بادی را تکمیل کرد. جزئیات مکانیکی تر را از سه کتابی استخراج کرده بود که متعلق به آقای جونز بودند. هزار کار مفید که می توانید برای ساختمان خود انجام دهید، بنای خود باشید و برق برای مبتدیان. اسنوبال کار طراحی را در اتاقکی که قبلا برای جوجه کشی استفاده میشد انجام میداد این اتاقک صاف و از جنس چوب بود بنابراین این راحت میشد روی آن نوشت و طراحی کرد. اسنوبال ساعتها خود را در آن اتاقک حبس و کار میکرد سنگی روی کتاب میگذاشت تا باز بماند و با گچ طراحی می کرد خط میکشید از این طرف به آن طرف میرفت و با هیجان فریاد میکشید کم کم طرح اسنوبال به طرح پیچیده از میله ها و چرخ دنده ها تبدیل شد که نیمی از کف اتاقک را پوشانده بود. ترهی که برای حیوانات دیگر نامفهوم بود. همه حیوانات حداقل روزی یک بار به اسنوبال سر می زدند. حتی مرغها و اردک ها هم می آمدند و مراقب بودند که پایشان را روی تر نگذارند. فقط ناپل اون بود که از اسنوبال و طرحش کناره می گرفت. او، از اول با این تر مخالف بود با این وجود یک روز رفت تا سری به آن بزند با دقت به جزئیاتش نگاه کرد و یکی دو بار آن را بویید بعد مدتی ایستاد و در حالی که از گوشه چشمش به آن نگاه می کرد به فکر فرو رفت ناگهان پایش را بالا گرفت و روی تر ادرار کرد بعد هم بدون آنکه کلمه ی حرف بزند از آنجا خارج شد بحث ساخت آسیاب بادی حیوانات مزرعه را به دو دسته تقسیم کرده بود اسنوبال انکار نمیکرد که ساختن آسیاب کار دشوار و مشقت باری است باید برای ساختن دیوارها سنگ می آوردند پرهای آسیاب را می ساختند و بعدش هم دستگاه مولد برق و کابل تهیه می کردند. اسنوبال چیزی درباره نحوه تهیه اینها نگفته بود اما نظرش این بود که میتوان کار ساخت آسیاب بادی را در یک سال به پایان برد. اسنوبال اضافه کرد با تولید برق می توان در نیروی کار سرفجویی کرد طوری که حیوانات فقط سه روز در هفته کار کنند. از طرفی ناپلئون تاکید داشت الان باید به فکر افزایش ذخیره آزوقه بود و اگر وقت خود را سر ساخت آسیاب بادی تلف کنند از گرسنگی خواهند مرد. حیوانات به دو حزب تقسیم شدند. که هر یک شعار مخصوص خود را داشت به اسنوبال رأی بدهید تا فقط سه روز در هفته کار کنید و به ناپل رأی دهید دهید تا آخرتان پر از غذا باشد بنجامین تنها حیوانی بود که به هیچ یک از این دو حزب نپیوست او نه اعتقادی به افزایش آزوغه داشت نه به اینکه آن آسیاب بتواند از میزان کارشان کم کند او می گفت با آسیاب یا بدون آسیاب زندگی شما مسیر نکبت بار خود را طی خواهد کرد غیر از بحث آسیاب مسئله دفاع از مزرعه هم وجود داشت واضح بود آدمها ها که در نبرد گاودانی شکست خورده بودند این بار مصمم از دفعه پیش به مزرعه حمله خواهند کرد تا آن را به آقای جانز بازگردانند آدم ها دیر یا زود حمله می کرد. چون خبر شکستشان در سراسر منطقه پیچیده و باعث شده بود حیواناتشان چموش شوند. مثل همیشه اسنوبال و ناپلئون بر سر این موضوع هم اختلاف داشتند ناپلئون عقیده داشت حیوانات باید نحوه استفاده از سلاح گرم را بیاموزند اسنوبال معتقد بود باید کبوترهای بیشتری به اطراف بفرستند و حیوانات مزارع دیگر را به شورش وادارند ناپلئون میگفت اگر از خود دفاع نکنند مغلوب خواهند شد و اسنوبال عقیده داشت با فراگیر شدن شورش دیگر نیازی به دفاع نخواهد بود. حیوانات اول به ناپل اون گوش می بعد به اسنوبال. نمی توانستند تشخیص بدهند حق با کدام یک از آنهاست. در واقع، هر یک که در آن لحظه حرف می زد، حق را به او میدادند. سرانجام روزی فرا رسید که ترهای اسنوبال کامل شدند. بنا شد در جلسه ی روز یکشنبه این سوال که آیا آسیاب بادی باید ساخته شود یا خیر به رأی گذاشته شود. وقتی همه حیوانات در آغال بزرگ جمع شدند، اسنوبال ایستاد و دلایل ساخت آسیاب بادی را برای حیوانات تشریح کرد. هرچند گاه و بیگاه گوسفندها با بعبع خود مانع حرف زدن او میشدند. بعد ناپلئون ایستاد تا جواب او را بدهد. او فقط گفت ساختن آسیاب بادی بیهود است و بهتر است این کار را نکنند و بلافاصله نشست صحبتش سیسانیه هم طول نکشید انگار به تأثیر حرفهایش روی حیوانات اهمیتی نمیداد اسنوبال بلند شد و گوسفندها را که دوباره شروع به بعبع کرده بودند ساکت کرد و مزایای ساخت آسیاب بادی را بیشتر توضیح داد تا حالا حیوانات تقریبا به دو دسته مساوی تقسیم شده بودند اما با سخنان فسیح اسنوبال، کفه ترازو به نفع او سنگین شد. اسنوبال تصویری از مزرعه حیوانات ارائه کرد که در آن حیوانات دیگر لازم نبود کارهای پست و طاقت فرسا انجام دهند. تصورات او حالا از دستگاه خرد کردن در خیلی فراتر رفته بود. او گفت برق می تواند دستگاه خرمن کوبی، گاو آهن، چنگک، قلتک و ماشین درو را به کار بیاندوزد. روشنایی و آب گرم و آب سرد استبلها را تأمین کند و در زمستان با گرم های محل زندگیشان را گرم نماید وقتی حرفهایش تمام شد تردیدی برای حیوانات باقی نماند که باید به چه کسی رأی بدهند اما در همین لحظه ناپل آن ایستاد نگاهی به اسنوبال انداخت و زوزه عجیبی کشید که تا به حال کسی نشنیده بود ناگهان صدای واق واق وحشتناکی از بیرون شنیده شد. و نه سگ بزرگ با قلاده های برنجی وارد آغل شدند آنها مستقیم به اسنوبال حمله کردند اگر دیر جنبیده بود سگها ها تک تکش کرده بودند اسنوبال فرار کرد و سگ ها تعقیبش کردند حیوانات حیران و وحشت زده به طرف در رفتند تا این تعقیب و گریز را ببینند اسنوبال از چراگاه گذشت و به سمت جاده دوید او با تمام سرعت میدوید اما سگها ها فاصله چندانی با او نداشتند ناگهان سرخ خورد و چیزی نمانده بود ها او را بگیرند و تکه پاره کنند. اما بلند شد و این بار سریع از قبل شروع به دویدن کرد. یکی از ها آروارش را به دوم اسنوبال نزدیک کرد. اما اسنوبال با چاباکی خالی داد و رفت توی سوراخ پرچین. و دیگر کسی او را ندید. حیوانات وحشت زده و ساکت به آغال برگشتند. چند لحظه بعد ها هم از راه رسیدند. اولش حیوانات متعجب بودند که این موجودات ترسناک از کجا آمدند اما خیلی زود همه چیز روشن شد این سگ ها همان توله‌هایی بودند که ناپلئون از مادرشان گرفته بود تا خودش به طور اختصاصی تربیتشان کند هرچند هنوز کاملا بزرگ نشده بودند اما به اندازه کافی درشت بودند و مثل گرگ‌ها قیافه‌ای ترسناکی داشتند سگها از ناپلئون دور نمی‌شدند و همانطور که سگ‌های دیگر برای آقای جانز دم میجمباندند برای ناپل آن دم تکان میدادند. ناپل اون به همراه سک رفت بالای سکو تا صحبت کند. همان سکویی که میجر پیر قبلا روی آن ایستاده و پیامش را به حیوانات داده بود. ناپل اون اعلام کرد از این به بعد جلسات صبح یکشنبه دیگر برگزار نمی شود چون ضرورتی ندارد و فقط باعث اطلاف وقت می شود. تصمیمات را کمیته ویژه ها به سرپرستی خودش در جلسات خصوصی گرفته و بعداً به سمع بقیه حیوانات خواهند رسند. حیوانات فقط یک ها جمع می شوند تا به پرچم ادای احترام کنند و سرود حیوانات انگلستان را بخوانند. بعد هم دستورها و کارهای مربوط به هفته بعد به آنها ابلاغ خواهد شد و دیگر نیازی به بحث بیشتر نخواهد بود. بیرون راندن اسنوبال از مزرعه به حیوانات وارد کرده. بود. اما شنیدن این خبر آنها را بیشتر شگفت زده کرد. بعضی از آنها قصد اعتراض داشتند. باکسر سردر در نمی‌آورد که چه اتفاقی افتاده است. گوش‌هایش آویزان شده بودند. چند بار کاکولش را تکان داد و سعی کرد نظمی به افکارش بدهد. اما در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید. چهار تا از خوک‌ها به نشانه اعتراض جیغ زدند. اما قرش سه بلافاصله آنها را خاموش کرد و سر جای خود نشاند. بعد گوسفندان شروع به بعبع کردن چهار پا خوب دو پا بد کردند و نزدیک یک ربع ساعت این کار را ادامه دادند. به این ترتیب دیگر مجالی برای بحث باقی نماند. بعدا اسکویلر را فرستادند تا مقررات جدید را برای حیوانات دهد اسکویلر گفت رفقا میدونم همتون قدردان دان فداکاری رفیق ناپلون هستید که این مسئولیت خطیر رو به عهده گرفته؟ فکر نکنین رهبری کار آسون و لذت بخشیه برعکس رهبری مسئولیت سنگین به حساب میاد هیچکس کس به اندازه رفیق ناپلئون به برابر بودن حیوانات اعتقاد نداره اون خوشحال میشه رو به خودتون بسپاره اما رفقا شما ممکنه تصمیمات اشتباه بگیرین و بعدش میدونین چی میشه فکر کنین دنبال اسنوبال و اون مزخرفاتش درباره آسیا به بادی میرفتین اسنوبالی که الان میدونیم یه مجرم و کاره. یکی گفت اما اون تو نبرد گاودونی شجاعانه جنگید اسکویلر جواب داد شجانه کافی نیست وفاداری و اطاعت مهمتره. درباره نبرد گاودونی هم دیر یا زود خواهید فهمید که درباره‌ی نقش اسنوبال مبالغه شده نظم رفقا نظم آهنین این شعار مونه اگه یه گام اشتباه برداریم دشمنان بر ما غلبه خواهند کرد مطمئنم نمیخواین جونز دوباره برگرده درسته باز همین بحث بی پاسخ ماند مطمئنا حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند و اگر برگزاری جلسات یکشنبه منجر به بازگشت او میشد، حیوانات با تعطیلی آن موافق بودند باکسر که فرصت کرده بود کمی فکر کند گفت اگه رفیق ناپل اون این رو میگه حتماً حق با اونه و از آن به بعد علاوه بر شعار بیشتر کار خواهم کرد این هم به شعارهای باکسر اضافه شد همیشه حق با ناپل کم کم سرمایه زمستان داشت رخت برمی بست و بهار در راه بود در اتاقکی را که اسنوبال ترها سیا بادی را کف آن کشیده بود بسته بودند به نظر می رسید تا حالا پاک شده باشند هر یک شنبه ساعت ده صبح حیوانات در آغل بزرگ جمع می شدند تا دستورهای هفته آینده را دریافت کنند جمجمه میجر پیر را از زیر خاک درآورده. روی کنده‌ی درختی کنار میله پرچم گذاشته بودند. بعد از بالا بردن پرچم، حیوانات قبل از اینکه وارد آغال شوند، باید به صف از کنار جمجمه عبور کرده و به آن احترام می گذاشتند. دیگر مثل قبل توی آغال کنار هم نمی نشستند. آن به همراه اسکویلر و خوک دیگری به نام مینیموس روی سکو می‌نشستند. مینیموس استعداد خار و غلادهی در سرودن شعر و ساختن آهنگ داشت سکها به صورت نیم دایر دورانها می نشستند و بقیه خوک ها پشت سر آنها. بقیه حیوانات روبروی آنها قرار می‌گرفتند. ناپل اون با صدای نظامی خشگیف فرامین مربوط به کارهای هفته آینده را قرائت میکرد. و پس از خواندن سرود حیوانات انگلستان همه پراکنده می شدند. سه هفته بعد از فرار اسنوبال حیوانات از شنیدن این خبر که ناپل اون گفته آسیاب بادی ساخته خواهد شد، شگفت زده شدند. ناپل اون دلیل تغییر عقیدهاش را بیان نکرد اما گفت که ساخت آسیاب مستلزم تلاش سخت و کارطاقت فرسا است و حتی ممکن است در صورت لزوم جیره غذایی آنها کاهش یابد. ترها با جزئیات کامل آماده شده بودند. کمیته ویژه از خوکها در سه هفته گذشته روی آن کار کرده بودند. انتظار میرفت ساخت آسیاب بادی با توجه به اصلاحاتی که در آن انجام شده بود. دو سال زمان ببرد آنشب اسکویلر برای حیوانات توضیح داد که در واقع ناپل اون هرگز با ساخت آسیاب مخالف نبوده است برعکس عکس که اسنوبال کف اتاق جوجه کشی کشیده بود متعلق به ناپل اون و اسنوبال آن را دزدیده بوده است یکی از حیوانات پرسید پس چرا ناپل اون آنقدر سر سختانه به آن مخالفت میکرد؟ اسکویلر جواب داد: رفیق ناپل اون تظاهر به مخالفت میکرد تا از شر اسنوبال راحت بشه چون اسنوبال شخصیت خطرناک و نافذی داشت حالا که اسنوبال از سر راه برداشته شده میتونیم طرح رو بدون مزاحمتون اجرا کنیم به این میگن تاکتیک تاکتیک رفقا تاکتیک ایوانات چندان متقاعد نشده بودند اما اسکویلر طوری فریب کارانه حرف میزد که کم کم همه قانع شدند البته قررش ستا از ها هم که با او بودند در این آمر بیترسیر نبود. مثل ششم حیوانات تمام آن سال مثل برده ها کار کردند اما از کار خود راضی و خوشحال بودند از هیچ فداکاری و تلاشی دریغ نمی کردند زیرا می دانستند هر کاری که میکنند برای خودشان و نسل بعدی هم است نه برای یک مشت آدم دوست و تنبل در بهار و تابستان هفته شست ساعت کار کردند ماه آگست ناپلون اعلام کرد بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست البته این کار کاملا داوطلبانه خواهد بود اما اگر حیوانی از کار بعد از ظهر یک شنبه غیبت کند جیرش نصف می شود مجبور شدند از بعضی کارها بزنند تا به ساخت آسیاب بپردازند میزان محصول از سال گذشته کمتر بود و موفق نشدند دوتا از زمینها را زیر کشت چغندر ببرند زیرا نتوانسته بودند زمین را به موقع شوخ بزنند احتمال داشت زمستان سختی در انتظارشان باشد. ساخت آسیاب بادی با اشکالاتی مواجه شد که توقعش را نداشتند. در مزرعه یک معدن سنگ آهک غنی وجود داشت. در حیات هم سیمان و ماسه و اندازه کافی داشتند. مشکل این بود که حیوانات نمی توانستن سنگهای بزرگ را خرد کنند تا به توان از آنها برای ساخت دیوار استفاده کرد. ظاهرا تنها روش خرد کردن سنگ ها استفاده از کلنگ و دیلم بود اما حیوانات بلد نبودند روی دو پا بایستند و با این نوع ابزار کار کنند بعد از هفته ها کار بیهوده بالاخره یکی از حیوانات موفق به حل این مشکل شد جاذبه زمین آنها سنگ های بزرگ را با تنا به بالای بلندی می کشیدند و از آنجا پایین میانداختند تا خرد شوند برای بالا کشیدن سنگ های بزرگ همه کمک می‌کردند. گاوها، اسب‌ها، گوسفندان و حتی ها. وقتی سنگ های بزرگ خرد می‌شدند، حمل آنها دیگر چندان مشکل نبود. اسب‌ها عرابه ها را پر از سنگ می‌کردند و می‌بردند. گوسفندان ها را یکی یکی حمل می‌کردند. موریل و بنجامین هم خودشان را به عرابه های کوچک می‌بستند و در بردن سنگ ها سهیم بودند. تا آخر تابستان سنگ کافی برای ساخت آسیاب فراهم شده بود. بنابراین ساخت آسیاب بادی با نظارت خوک آغاز شد. کار به کندی پیش می رفت و تاقت فرسا بود. گاهی یک روز تمام طول می تا سنگ بزرگی را بالای بلندی ببرند. گاهی هم سنگ پایین می افتاد، اما خرد نمی شد. اگر باکسر نبود هیچ کاری انجام نمی شد. او به تنهایی به اندازه مجموعه حیوانات دیگر نیرو داشت. وقتی حیوانات نمی توانستن تناب را نگه دارند و سنگ بزرگی آنها را پایین میکشید باکسر یک تنه تناب را می گرفت و سنگ را نگه می داشت. باکسر ها را ذره ذره بالا میکشید نفس نفس میزد و خیس عرق می شد. تلاش او همه حیوانات را به تحسین واداشته بود. کلوور به او می گفت بیش از حد به خود فشار نیاور. اما گوش باکسر به این حرفها بدهکار نبود. دو شعار او یعنی بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون پاسخ او به تمام مشکلات بود. به جوجه خروس گفته بود صبحها به جای نیم ساعت او را چهل و پنج دقیقه زودتر بیدار کند. باکسر در اوقات فراغتش که این روزها چندان هم پیش نمی آمد به تنهایی به معدن سنگ های خرد شده را جمع می کرد و بدون کمک دیگران به محل ساخت آسیاب می‌برد. با وجود کار طاقت فرسا، تابستان آنسال وضع حیوانات خیلی بد نبود غذایشان بیشتر از زمان جونز نبود اما جیره غذایشان کمتر هم نبود خوبیش این بود که خودشان کار میکردند و خودشان هم میخوردند و لازم نبود شکم پنجتا آدم بی مصرف را هم پر کنند این مسئله به آنها روحیه میداد و کمکشان میکرد تا بر مشکلات غلبه کنند در بسیاری از مواقع روش حیوانات کاراتر بود و در نیروی کار صرفه جویی میشد مثلا در کندن علف های حرز طوری عمل می کردن که برای آدمها غیر ممکن بود از طرفی چون حیوانات دزدی نمیکردند. نیازی به جدا کردن چراگاه از باغ و کشتزار نبود در نتیجه لازم نبود وقتی هم به درست کردن پرچین و دروازه اختصاص بدهند با به پایان رسیدن تابستان یک سری از کمبودها آشکار شدند حیوانات به نفت چراغ میخ نخ، بیسکویت سگ و آهن برای نل اسب ها نیاز داشتند و هیچ کدام از اینها را نمیشد در مزرعه تولید کرد. بعدن متوجه شدند به بذر و کود شیمیایی هم نیاز دارند. همچنین ابزار کار و قطعات مکانیکی برای ساخت آسیاب بادی. هیچ کس نمی دانست چطور باید این وسایل را تهیه کرد. یکی از صبح های یک شنبه بود و حیوانات جمع شده بودند تا دستور کار هفته ی آینده را دریافت کنند. ناپل اون اعلام کرد از این به بعد مزرعه حیوانات با مزارع همسایه وارد داد و ستت خواهد شد البته نه به منظور اهداف تجاری بلکه برای فراهم کردن اقلام ضروری او گفت تامین مسلح و قطعات مورد نیاز برای ساخت آسیاب از همه چیز مهمتر است بنابراین باید بخشی از محصول یونجه و قله امسال را بفروشند و اگر به پول بیشتری نیاز بود به فروش تخم مرغ روی بیاورد که همیشه در ویلینگدون بازار خوبی دارند ناپل گفت مرغها باید از این فداکاری استقبال کنند و به این وسیله سهمی در ساخت آسیا به بادی داشته باشند حیوانات دوباره به فکر فرو رفتند مگر قرار نبود هرگز با بشر معامله نکنند درگیر تجارت نشوند و از پول استفاده نکنند بر سر این نکته در اولین جلسه بعد از بیرون کردن جونز توافق شده بود همه حیوانات آن را به یاد می آوردن یا فکر می که به یاد می آورند. چهار خوکی که دفعه پیش اعتراض کرده بودند موقعی که ناپل آن جلسات عمومی را لغو کرده بود با ترس و لرز اعتراض کردند. اما با گررش وحشتناک سک ها ساکت شدند. بعد هم مثل همیشه گوسفندان شروع به بعبه کردن چهار پا خوب دو پا بد کردند و بس خاتمه یافت. ناپل آنها را ساکت کرد و گفت. خودش ترتیب همه کارها را داده است. او گفت نیازی نیست که هیچ حیوانی با بشر تماس داشته باشد چون برایش خوب نیست و خودش به تنهایی این بار را به دوش خواهد کشید. بنابود یک مشاور حقوقی به نام آقای ویمپر که در ولینگدون زندگی می کرد واسطه بین مزرعه حیوانات و دنیای بیرون باشد. او هر دوشنبه صبح به مزرعه حیوانات می آمد تا دستورهای مربوط را دریافت کند. در پایان مثل همیشه ناپلئون فریاد زد زنده باد مزرعی حیوانات بعد سرود حیوانات انگلستان خوانده شد و حیوانات پراکنده شدند باز هم اسکویلر چرخی در مزرعه زد تا توضیحات لازم را به حیوانات بدهد اسکویلر گفت هیچ مصوبهای درباره وارد نشدن در تجارت یا استفاده نکردن از پول تصویب یا پیشنهاد نشده است اینها تصور محض است یا ممکن است از دروغهای اسنوبال باشد هنوز بعضی از حیوانات به این قضیه شک داشتند اسکویلر از آنها پرسید رفقا مطمئنین خواب ندیدین؟ سند یا در این زمینه دارین؟ جایی ثبت شده که تجارت و استفاده از پول ممنوعه؟ و چون نوشتهی در این خصوص موجود نبود حیوانات با خود فکر کردند که حتما دارن اشتباه می آقای ویمپر هر دوشنبه صبح به مزرعه می آمد. او مردی موزی و ریزنقش با خط ریشی بلند بود، یک مشاور حقوقی در امور جزئی. اما آنقدر باهوش بود که قبل از دیگران متوجه شود. مزرعه حیوانات نیاز به یک واسطه برای ارتباط با دنیای بیرون دارد و این دلالی سود سرشاری خواهد داشت. حیوانات با ترس و لرز آمد و رفت او را تماشا میکردند و سعی داشتند حتی امکان سر راه او سبز نشوند. البته دیدن صحنه دستور دادن ناپل آن چهار پا به ویمپر پا برایشان قرور آفرین بود و باعث می شد به این کار رضایت بدهند. رابطه آنها با بشر مثل قبل نبود. آدمها همچنان از مزرعه حیوانات متنفر بودند و فکر می کردند دیر یا زود کار مزرعه تمام می شود و ساخت آسیاب بادی هرگز به سر انجام نمی رسد. در میخانه جمع میشدند و با رسم شکل و نمودار به یکدیگر ثابت می کردند که ساختمان آسیاب فرو خواهد ریخت. اگر هم سرپا بماند کار نخواهد کرد. با این وجود برخلاف میل باطنیشان به تدبیر حیوانات در اداره مزرعه احترام میگذاشتند. یکی از علائم این محترم شمردن این بود که دیگر مزرعه را به عنوان مزرعه مانر نمی شناختند و به آن مزرعه حیوانات میگفتند. جونز به کلی امید پس گرفتن مزرعه‌اش را از دست داده بود و در بخش دیگری از شهر زندگی می کرد. غیر از آقای ویمپر، انسان دیگری با مزرعه حیوانات رابطه نداشت. شایعاتی به گوش میرسید که ناپلئون قصد دارد با آقای پیلکینگتون از فاکسفود یا آقای فردریک از پینچفیلد وارد معامله شود. البته نه به طور همزمان با هر دوی آنها. همین روزها بود که ناگهان ها به خانه آقای جونز نقل مکان کردند. حیوانات یادشان آمد که روزهای اول توافق کرده بودند هیچ حیوانی در خانه زندگی نکند. اما دوباره اسکویلر حیوانات را متقاعد کرد که قضیان آنطور نیست که فکر میکنند. او گفت خوک ها که مغز متفکر مزرعه هستند باید یک جای آرام برای کار کردن داشته باشند. زمنان در شعن پیشوا نیست که در خوکدانی زندگی کند. اخیراً به ناپل آن لقب پیشوا داده بودند. حیوانات متوجه شدند، خوک ها نه تنها در آشپزخانه غذا می خورند و در پذیرایی به تفریح می پردازند بلکه روی تخت هم می خوابند باکسر سعی کرد این مسئله را با گفتن شعار همیشه حق با ناپل است ماستمادی کند اما کلوفر که حتم داشت فرمانی مبنی بر ممنوع بودن خوابیدن روی تخت وجود داشته رفت تا هفت فرمان را مرور کند از آنجایی که سوادش کم بود نتوانست فرمان ها را بخواند و دست به دامن موریل شد. موریل، فرمان چهارم رو برام بخون. درباره این نیست که حیوانات هرگز نباید روی تخت بخوابند؟ موریل نه چندان راحت آن را خواند. هیچ حیوانی نباید با ملافه در تخت بخوابد. کلوفر یادش نمی آمد که در فرمان چهارم چیزی درباره ملافه آمده باشد. اما با خود فکر کرد چون روی دیوار چون این چیزی نوشته شده است حتما از اول همین طور بوده اسکویلر که به همراه دو یا سه سگ همان لحظه از آنجا عبور می‌کرد اینطور توضیح داد رفقا پس شما هم شنیدین که خوکها روی تخت می‌خوابن چرا که نه هیچ قانونی نیست که ما را از این کار منع کنه تخت برای خوابیدنه مشتکا توی تپیله که شما روش میخوابین هم مثل تخت جایی برای خوابیدنه فرمان چهارم درباره عدم استفاده از ملافه است که اختراع بشره ما ملافه رو دور انداختیم و روی تخت میخوابیم درسته که تخت جای راحت و نرمی برای خوابیدنه اما با این همه کار فکری که ما این روزها داریم چندان هم راحت به حساب نمیاد شما که نمیخواید اونقدر خسته باشیم که از پس انجام وظایفمون بر نیاییم مطمئنم هیچ کدوم از شما نمیخواییم که جونز برگرده درسته حیوانات به او اطمینان دادند که به هیچ وجه خواهان بازگشت جانز نیستند و بحث خوابیدن ها روی تخت در همین جا خاتمه یافت. چند روز بعد وقتی اعلام شد از این به بعد خوک ها صبحها یک ساعت دیرتر از بقیه بیدار میشوند دیگر کسی اعتراض نکرد. وقتی پاییز شد حیوانات خسته اما خوشحال بودند. سال سختی را پشت سر گذاشته بودند. بعد از فروش بخشی از محصول یانجه و قله انبارها کاملا پر نبودند، اما آسیاب بادی همه یک هم بودها را جبران میکرد. تقریبا نیمی از بنای آسیاب ساخته شده بود. بعد از برداشت محصول، چند روزی هوا خوب بود. حیوانات سختتر از گذشته تلاش میکردند تا حتی به اندازه چند سانتی هم که شده دیوارها را بالاتر ببرند. باکسر حتی شبها هم یکی دو ساعت زیر نور ماه کار میکرد. حیوانات وقتی بیکار میشدند دور بنای آسیاب گشتند و استحکام دیوارها را تحسین میکردند. خودشان هم باورشان نمیشد که چنین بنای با ابهتی را ساخته باشند. فقط بنجامین پیر بود که نسبت به ساخت آسیاب حیجان نداشت. مثل همیشه همان حرف مرموز را میزد که الاغ‌ها عمر درازی دارند. ماه نوام از راه رسید. بادهای سهمگینی از جنوب غرب می‌وزید. کار ساخت آسیا به سبب بارندگی متوقف شده بود چون نمی توانستن سیمان را با ماسه مخلود کنند. یک شب تون بادی وحشتناک شروع به وزیدن کرد. ساختمان ها به لرزه درآمدند و چند سفال از بام آغل پایین افتاد. مرغها ها وحشت زده از خواب پریدند چون همه در خواب و بیداری صدای شلیک گلوله شنیده بودند. صبح حیوانات بیرون آمدند و دیدند میله پرچم از جا کنده شده. همچنین یک درخت نارون مثل تروپچه از ریشه درآمده است. وقتی چشمشان به آسیاب افتاد، دادشان به آسمان رفت. آسیاب بادی ویران شده بود. همه با هم به سمت آسیاب دویدند. حتی ناپل اون که به ندرت می‌دوید جلوی همه آنها بود. حاصل آن همه زحمتشان ویران شده بود. سنگهایی که با آن سختی شکسته و به آنجا برده بودند، در اطراف پراکنده شده بودند. اولش زبان همه بند آمده بود و فقط مات و مبهوت به بقایای یا آسیاب نگاه می کردند. ناپل اون این طرفان طرف و انطرف می رفت و زمین را بول می کشید. را سیخ کرده بود که به معنی فعالیت شدید ذهنی بود. ناگهان ایستاد انگار چیزی را کشف کرده بود. به آرامی گفت رفقا میدونین کی مسئول این ویرانیه؟ دشمنی را که در تاریکی شب اومده و آسیا به ما را خراب کرده میشناسین؟ اسنوبال بعد با صدای بلند فریاد زد اسنوبال این کار را کرده اون میخواسته اینطوری نخشه های ما را به هم بریزه تا به خاطر اخراج مفتزهانش انتقام بگیره این خائن از تاریکی استفاده و شبانه به اینجا اومده و زحمت یک ساله ما را نابود کرده نشان درجه دوم شجاعت و 20 کیلو سیب متعلق به کسیه که ادالت را در اون اجرا کنه اگه کسی زنده بگیردش چهل کیلو سیب جایزه می گیره حیوانات آنقدر عصبانی شده بودند که میخواستند خرخری اسنوبال را بجوند. با خود فکر میکردند اگر اسنوبال برگشت چطور او را دستگیر کنند. بلافاصله کمی دورتر از تپه رد پای خوکی روی علف ها پیدا شد که به سوراخی در پرچین منتهی ناپل ناپلئون رد پاها را بو کرد و گفت متعلق به اسنوبال هستند. گفت به نظر او اسنوبال احتمالاً از سمت مزرعی فاکس بود آمده است. ناپل اون بعد از بررسی رد پاها فریاد زد. تأخیر جایز نیست رفقا. خیلی کار داریم. از همین امروز صبح کار ساخت آسیا به بادی رو دوباره شروع می کنیم. تمام زمستون رو با هر شرایطی کار می کنیم. به اون خائن بدبخت می فهمونیم که نمی به این راحتی ها جلوی کار ما رو بگیره. یادتون باشه رفقا هیچ تغییری نباید در اجرای نقشه هامون به وجود بیا تا روزی که اونها رو به سر انجام برسونیم به پیش رفقا زنده باد آسیا بادی. زنده باد مزرعه حیوانا فصل هفتم زمستان سختی بود هوای طوفانی برف و بوران را به همراه داشت و سرمای فلج کننده تا ماه فوریه ادامه یافت حیوانات نهایت سعی خود را برای بازسازی آسیاب به کار می گرفتند. خوب میدانستند که دنیای بیرون به تماشای آنها نشسته و اگر به موقع بنای آسیاب را به اتمام نرسانند بشر حسود خوشحال خواهد شد آدمها ها میگفتند اسنبال آسیاب بادی را خراب نکرده و فرو ریختن آسیاب به علت نازک بودن دیوارها بوده است حیوانات میدانستند که دلیل فرو ریختن آسیاب این نبوده با این وجود تصمیم گرفتند زخامت دیوار را از نیم متر به یک متر افزایش دهند برای همین باید سنگ بیشتری جمع می کردند برای مدتی طولانی معدن سنگ زیر توده ای از برف مدفون و کار متوقف شده بود چند روزی که از برف خبری نبود کار کمی پیش رفت. اما حیوانات مثل سابق شور و امید نداشتند. سردشان بود و معمولا گرسنه بودند. فقط باکسر و کلوور همچنان پر امید کار می اسکویلر خطابه در فضیلت کار و کوشش و خدمت به اهداف شورش ایراد می اما نیروی باکسر و جمله معروفش من بیشتر کار خواهم کرد بیش از حرفهای اسکویلر به حیوانات انگیزه و امید میداد. در ماه ژانویه با کمبود آذوقه مواجه شدند. جیره قله به طور چشمگیری کاهش یافت. اعلام شد به جای آن یک سیب زمینی اضافه به هر کس داده خواهد شد. بعد معلوم شد چون روی سیب ها را خوب نپوشاندند، اکثر آنها نرم و خراب شدهاند فقط مقدار کمی از آنها خوردنی بودند. تا روزها حیوانات جز پوشال و چغاند در چیزی برای خوردن نداشتند. گرسنگی داشت آنها را از پاد در میآورد. اما باید این واقعیت را از دنیای بیرون مخفی نگه می‌داشتند. آدم‌ها به دلیل فروریختن آسیاب بادی جسارت پیدا کرده بودند و شایعات جدیدی درباره مزرعه حیوانات می‌ساختند. می‌گفتند حیوانات دارن از قحطی و بیماری جان خود را از دست می‌دهند و هم‌نوعان و بچه‌هایشان را می‌کشند و میخورند ناپل اون به خوبی میدانست اگر قضیه کمبود آزوقه به بیرون درس پیدا کند عواقب بدی در انتظار مزرعه حیوانات خواهد بود بنابراین این تصمیم گرفت با کمک آقای ویمپر عکس این موضوع را به گوش آدم ها برساند تا به حال حیوانات تماسی با آقای ویمپر نداشتند او هفته یک بار به مزرعه می آمد چند تا از حیوانات که بیشترشان از گوسفندها بودند انتخاب شدند تا سر راه آقای ویمپر صبز شده. و جیره غذاییشان افسایش پیدا کرده است. ناپلئون همچنین دستور داد سطح های قله را تا نزدیکی لبه از شن پر کنند و روی آنها را با قله بپوشانند. بعد به بهانه آقای ویمپر را برای بازدید به انبار بردند تا نگاهی به موجودی آزوغه بیاندازد. او فریب خورد و به دنیای بیرون گزارش داد حیوانات هیچ مشکلی از نظر تأمین آزوغه ندارند و انبارشان پر است اواخر جانویه به این نتیجه رسیدند که باید از جایی آزوقه تهیه کنند وگرنه همه از گرسنگی خواهند مرد. این روزها ناپل کمتر کم دیده می و اکثر اوقاتش را در خانه می گذارند. جلوی هر یک از درهای خانه سگهای ترس ناک نگهبانی می دادند و کسی جرأت نداشت به آنجا نزدیک شود. وقتی هم که ناپل آن بیرون میآمد با تشریفات خاصی با شش سگ همراهی هم و کسی جرأت نمیکرد چندان به اون نزدیک شود دیگر صبحهای یکشنبه هم به جمع حیوانات نمیآمد و دستوراتش را از طریق خوک دیگری اکثرا اسکویلر ابلاغ میکرد صبح یکشنبه اسکویلر اعلام کرد مرغها باید تخمهایی را که به منظور جوجه گذاشته اند تحویل دهند ناپلئون با آقای وینپر قراردادی بسته و تعهد کرده بود هر هفته چهارصد تخم مرغ به او تحویل دهد با پول آن می کمبود آزوغه را تا آمدن تابستان و بهتر شدن اوزا تأمین کنند مرغها با شنیدن این خبر فریادشان به آسمان رفت قبلا به آنها هشدار داده شده بود که ممکن است روزی به این ایثار احتیاج باشد اما فکر نمی کردند این اتفاق واقعا بیفتد. آنها داشتن آماده می شدند که با رسیدن فصل بهار روی تخم هایشان بخوابند تا تخم ها تبدیل به جوجه شوند به نظر مرغها گرفتن هایشان در این آوزا یک جنایت هولناک به حساب می آمد. برای اولین بار بعد از بیرون کردن جانز، چیزی شبیه شورش در مزرعه حیوانات به وجود آمد. سه مرغ سیاه ای این شورش را رهبری کردند. آنها عزم خود را جزم کرده بودند تا آرزوهای ناپلئون را برباد دهند. روی تیر افقی می نشستند و تخم کردند تا تخمشان بیفتد و بشکند و به دست ناپلئون نرسد. ناپل اون واکنشی سریع و بیرحمان نشان داد. دستور داد جیره غذایی مرغها را قطع کنند و اعلام کرد هر حیوانی که حتی یک دانه به مرخ بدهد به مرگ محکوم خواهد شد. سک ها مراقب بودند تا دستورهای های ناپل اون به درستی اجرا شود. مرغها پنج روز مقاومت کردند اما بالاخره تسلیم شدند و به لانه هایشان بازگشدند. نهتا از مرغها مردند و جسدشان در باغ دفن شد. اعلام کردند که مرغها در اثر ابتلا به بیماری جان خود را از دست دادند. ویمپر چیزی از این قضیه نفهمید و سر وقت تخم مرخ را تحویل گرفت. وانت خاربار فروشی هر هفته می آمد و تخم مرخ را می برد. در این مدت خبری از اسنوبال نبود. شایعه شده بود در مزرعه فاکس بود یا پینش فیلد مخفی شده است. مناسبات ناپل آن با دیگر مزاره بهتر از قبل شده بود. از ده سال پیش مقداری الوار توی حیات جمع شده بود. آقای ویمپر با دیدن آنها به ناپل اون پیش نهاد کرد، آنها را بفروشد هم آقای پیرکینگتون و هم آقای فردریک مایل به خریدن آنها بودند. ناپل اون نمیدانست، با کدام یک از آنها معامله کند. البته مشکلی نبود اگر با مزرعه فاکسفود معامله می کرد شایعه می شدد که اسنوبال در مزرعه پینچفیلد است و اگر با پینچفیلد معامله میکرد گفته می شد اسنوبال در مزرعی فاکسفود مخفی شده است ناگهان در اوایل بهار کشف کردند اسنوبال در تاریکی شب دزدانه به مزرعه میآید حیوانات آنقدر وحشت کرده بودند که شبها از ترس خوابشان نمیبرد میگفتند اسنوبال هر شب میآید و دست به هر جرم و جنایتی میزنند قله می دسته شیر را واژگون می تخم تخ مرغها را میشهاند زمین های بعض پاشیده را لگدمال مال می کند و پوست درختان میوه را می جود. هر کار بدی که در مزرعه انجام میشد به اسنوبال نسبت میدادند اگر شیشه پنجره می شکست یا راه آب بسته می شد یکی پیدا می شد که با قطعیت بگوید اسنوبال شبانه آمد و این کار را کرده است حتی وقتی کلید انبار گم شد گفتند اسنوبال آن را در چاه انداخته است با اینکه مدتی بد کلید زیر یکی از کیسه های پیدا شد چیزی از بدبینی حیوانات به اسنوبال کم نکرد. گاوها همگی اعلام کردند وقتی شبها خوابند اسنوبال میآید و آنها را می دوشد. گفته می‌شد موش‌های موشهای دردسرساز هم هم دست اسنوبال هستند. ناپلئون اعلام کرد باید تحقیق جامعی در خصوص فعالیت های اسنوبال انجام شود. او به همراه سگهایش، شروع به گشت زدن در ساختمان های مزرعه کرد. حیوانات هم با فاصله دنبال آنها میرفتند ناپلئون ناپل آن هر چند قدم می و زمین را بو می کرد. می گفت می تواند بوی اسنوبال را تشخیص دهد. همه گوش کنارهای مزرعه را گشت. آغل، گاودانی، مرگدانی، زمین کشت سیفی جاتو. جالب این که همه جا رد پای اسنوبال پیدا می شد. ناپل اون پوزش را روی زمین می گذاشت. چند بار محکم می کشید و با صدایی خشن میگفت: اسنوبال اون اینجا بوده بوش را حس میکنم. سگ ها با شنیدن اسم اسنوبال وحشیانه میقرریند و دندان های نیششان را نشان میدادند. حیوانات وحشت کرده بودند انگار اسنوبال مثل یک روح سرگردان همه جا حضور داشت و آنها را با انواع خطرات تهدید میکرد. اسکویلر همه را جمع کرد و با لحنی دهنده اعلام کرد خبر مهمی را باید با آنها در میان بگذارد. رفقا، اتفاق وحشتناکی افتاده. اسنوبال خودش را به فردریک مالک مزرعه فیلد فروخته. فردریک در تدارک حمله به اینجاست تا مزرعه مون رو ازمون بگیره. اسنوبال اون را تو حمله راهنمایی خواهد کرد. اما بدتر از اون اینه که فهمیدیم اسنوبال به خاطر غرور و جاه این کارها رو نمیکنه بلکه از اول هم دسته جونز بوده. امن مخفی جونز اسناد و مدارکی که اخیرا از اسنوبال پیدا کردیم این قضیه رو ثابت و روشن میکنه که اون چطور در نبرد گافدونی سعی کرد ما شکست بخوریم و مذعف ویران بشه البته خوشبختانه موفق به این کار نشد حیوانات از این حرفها حیرت کرده بودند این بدزاتی اسنوبال حتی از خراب کردن آسیاب بادی هم بدتر بود چند دقیقه طول کشید تا حیوانات بتوانند این مسئله را هضم کنند حتی یادشان میآمد یا فکر می‌کردن یادشان می‌آید دیده بودن اسنوبال چگونه در نبرد گاودانی شجاعانه حمله می‌کرد و حتی زمانی که تیر خورده بود دست از جنگ نمی‌کشید نبرد شجاعانه او با اینکه عامل جونز باشد جور در نمی‌آمد حتی باکسر که به ندرت سوال می‌کرد گیج شده بود روی زمین لم داده سمهایش را زیر شکمش جمع کرده چشمهایش را بسته بود و به سختی تلاش میکرد نظمی به افکارش بدهد باکسر گفت من این حرفا رو باور نمی کنم توی نورد گافدینی جسورانه جنگید با همین دوتا چشم خودم دیدم مگه خودمون بلافاصله بهش نشانه درجه اول شجاعت ندادیم اسکویلر گفت اشتباه کردیم رفیق حالا بر اساس اسناد مهرمانهی که به دست آوردیم متوجه شدیم ما را فریب داده بود و داشت به نابودی می کشد. باکسر گفت: اما اون زخمی شد اما اون دیدیم که زخمش خون ریزی می کرد. اسکویلر گفت: اون هم بخشی از نقششون بود. جونز طوری به اون شلیک کرد که فقط خراش برداره اگه میتونستیم بخونین این رو تو نوشته بهتون نشون می دادم. نقش این بود که در لحظه حساس اسنوبال دستور عقب نشینی بده و میدون نبرد رو خالی کنه اگه پیشوای قهرمانمون نبود اسنوبال موفق می شد شومش رو عملی کنه یادتون نیست درست زمانی که جونز و افرادش وارد حیات شدند اسنوبال یک دفعه پا به فرار گذاشت و حیوانات رو هم دنبال خودش کشوند درست همون وقتی که همه وحشت زده شده بودند و همه چیز داشت از دست میرفت رفیق ناپلئون بیرون پرید و با فریاد مرگ بر بشر دندونهاش رو توی پای جونز فرو کرد حتما این رو یادتون میاد رفقا نه حالا که اسکوایلر با جزئیات کامل صحنه نبرد را توصیف کرد. حیوانات فکر کردند که این صحنه‌ها را به یاد میآورند. به یاد آوردن که در لحظه حساس اسنوبال را در حال فرار دیدند. اما حزم این مسئله هنوز برای باکسر سخت بود. باکسر گفت من باور نمی کنم اسنوبال از اول خائن بوده باشه. اینکه بعد از نبرد چه کار کرده بحث دیگه ایه. ولی توی نبرد گاودونی رفیق خوبی بود. اسکویلر آهسته و محکم گفت پیشوای ما رفیق ناپل اون اعلام کرده به طور قطع اسنوبال عامل جانز بوده. حتی مدت ها قبل از اینکه فکر شورش به سر ما بیفته باکسر گفت خب حالا قضیه فرق کرد اگه رفیق ناپل اون چون این چیزی گفته حتما درسته اسکویلر گفت آها این شد یه چیزی رفیق اما نگاه ترخی از گوشه چشم به باکسر انداخت برگشت که برود اما ایستاد و اضافه کرد به همه حیوانات مزرعه هشدار میدم که چشم هاشون رو باز نگه دارن چون شواهدی هست که ثابت میکنه اسنوبل جاسوس هایی بین ما داره چهار روز بعد موقع غروب ناپل آن دستور داد همه حیوانات در حیات جمع شوند وقتی همه جمع شدند ناپل آن از ساختمان بیرون آمد در حالی که هر دو مدالش را به سینه آویخته بود او اخیراً به خودش یک مدال درجه یک و یک مدال درجه دوی حیوانی اعطا کرده بود نه سگ وفادارش دور او را گرفته بودند و از قررش آنها لرز بر تن حیوانات میافتد همهی حیوانات ساکت سر جایشان نشستند انگار بو برده بودند که قرار است اتفاق وحشتناکی بیفتد ناپل با حالت خشک نظامی ایستاد و مخاطبانش را ورانداز کرد بعد نر بلندی کشید بلافاصله فاصله سگ به چهار تا از خوکها حمله کردند گوش آنها را گرفتند و جلوی پای ناپلئون آن انداختند. خوک ها وحشت کرده بودند و از گوششان خون می چکید. ها تعم خون را چشیده و داشتند. دیوانه می شدند. در مقابل چشم های حیرت زده حیوانات، سه تا از سگ ها به باکسر حمله کردند. باکسر آنها را دید. با سومش یکی از سگ ها را روی هوا زد و او را به زمین دوخت. سگ از ترس زوزه میکشید. دو سگ دیگر دومشان را بین پاهایشان جمع کرد و پا به فرار گذاشت باکسر به ناپل آن نگاه کرد تا بفهمد که باید سگ را بکشد یا رها کند. قیافه ناپل آن کمی عوض شد و فوراً دستور داد که باکسر سگ را رها کند. باکسر سوم بزرگش را از روی سگ برداشت و سگ زوز کشان در حالی که بدنش کوفته و کبوت شده بود راهش را گرفت و رفت. چهار خوک گناهکار آنجا ایستاده بودند و از ترس می اریدند. ناپل اون به آنها دستور داد تا به جرمشان اعتراف کنند. اینها؟ همان چهار خوکی بودند که به دلیل لقب جلسات روزهای یکشنبه به ناپلئون اعتراض کرده بودند. آنها اعتراف کردند که بعد از اخراج اسنوبال مخفیانه با او ارتباط داشته و در خراب کردن آسیاب بادی نیز با او هم دست بودند. همچنین توافق کردند مزرعه حیوانات را به آقای فردریک تسلیم کنند. خوک ها گفتند اسنوبال به آنها گفته که از سالها پیش عامل جونز بوده است. وقتی اعتراف خوکها به پایان رسید سک ها بدون معطلی گلوی آنها را دریدند. ناپل آن با صدایی وحشتناک اعلام کرد اگر حیوانی می‌خواهد به گناهانش اعتراف کند بیاید جلو. سه مرغی که در ماجرای فروش تخم مرغ سر دست شورشیان بودند جلو آمدند و اعتراف کردند شبیه اسنوبال را در خواب دیدند که به آنها گفته از دستورهای ناپل آن پیروی نکنند. مرغها هم به طرز فجیعی کشته شدند. بعد، غازی جلو آمد و اعتراف کرد پارسال شش خوش گندم به سرقت برده و شبانه خورده است. گوسفندی اعتراف کرد اسنابال به او دستور داده در منبع آب آشامیدنی ادرار کند. دو گوسفند دیگر اعتراف کردند قوچ پیری را که از فدایان ناپل اون بود آنقدر دور آتش دواندند که جان خود را از دست داده است. همه یانها اعدام شدند. اعترافات ادامه پیدا کرد. و گناهکاران اعدام شدند تا اینکه جلوی پای ناپلئون ای از کشتگان درست شد. هوا از بوی خون سنگین شده بود. بویی که از زمان اخراج جونز تا به امروز به مشام حیوانات نخورده بود. وقتی این مراسم خشونتبار به پایان رسید، همه حیوانات جز خوک‌ها و سگها آنجا را ترک کردند. از ترس و اندوه می‌لرزیدند. نمیدانستند خیانت حیوانات همدست اسنوبال وحشتناک‌تر است. یا مجازات بی رحمانه ناپلئون قبلا هم شاهد قتل و خونریزی بودند اما این بار ناگوارتر بود چون این اتفاق بین خود حیوانات افتاده بود از زمان رفتن جانز تا حالا هیچ حیوانی حیوان دیگر را نکشته بود حتی یک موش هم کشته نشده بود حیوانات به سمت تپه رفتند و کنار آسیاب نیمه کار نزدیک هم نشستند انگار به گرمای هم نیاز داشتند كلوور موریل بنجامین گاوها گوسفندان قازها، مرغها همه بجز گربه که قبل از مراسم اعدام قیبش زده بود برای مدتی کسی حرفی نزد همه نشسته بودند جز باکسر او با بیقراری به این سو آنسو میرفت و با دم بلندش به پهلوهای خود میزد سرانجام شیحهای كوتایی کشید و گفت نمیفهمم باورم نمیشه چنین اتفاقی توی مزرعه ما افتاده باشه حتما اشتباه از خودمون بوده فکر میکنم راه حلش این باشه که بیشتر کار کنیم من از این مبد هر روز صبح یک ساعت زودتر بیدار میشم باکسر با گفتن این حرف سلانه سلانه به طرف معدن رفت و شروع کرد به جمع کردن سنگ تا قبل از تاریک شدن هوا مقداری سنگ برای ساخت آسیاب بیاورد حیوانات بدون آنکه حرفی بزنند دور کلوور حلقه زدند از روی تپه میشد کل مزرع رادی. چراگاه که تا جاده اصلی امتداد میافت، یزار بوتزار، استخر آب زمین های شخم زده که جوان های سبز گندم از آنها سر برآورده بودند. صختفه قرمز رنگ ساختمانها که دود سیاه از دودکش آنها با پیچ و تاب خارج میشد. علف و نیز پرچین که نور خورشید رنگی طلایی به آنها داده بود همه مال خودشان بود، هر وجب آن. اشک در چشمان کللوور حلقه زد. اگر می توانست افکارش را به زبان بیاورد میگفت که هدف از بیرون راندن بشر این نبوده که امروز شاهد حیوان کشی باشند. شبی که میجر پیر آنها را تشویق به شورش کرده بود قصدش این نبود که حیوانات شاهد چنین صحنه‌های وحشتناک قتل و خون ریزی باشند. تصویری که کللوور از آینده در ذهن داشت این بود که، حیوانات فارغ از گرسنگی و شلاق در آرامش کنار هم زندگی کنند. همه حیوانات با هم برابر باشند. هر کس به اندازه توانش کار کند. قوی از ضعیف حمایت کند. همانطور که خودش جوجه اردک ها را شب سخنرانی میجر پیر پناه داده بود. اما حالا کسی جرأت نداشت افکارش را بر زبان جاری کند. سگهای ترسناک همه جا پرسه میزدند. و حیوانات باید رفقای خود را میدیدند که پس از اعتراف به گناهان وحشتناک جلوی چشمشان تکه تکه می شوند. فکر شورش و در سر کلاور نبود چون می وضعشان از زمان جونز بهتر است و به هیچ وجه نباید اجازه دهند پای بشر پلید دوباره به مزرعه باز شود. در هر شرایطی او ایمانش را حفظ می کرد. سخت کار میکرد. دستوراتی که به او داده میشد، اطاعت میکرد و رهبری ناپلئون آن را قبول داشت. اما او و بقیه حیوانات، این همه زحمت نکشیده بودند که به چنین روزی برسند. برای این آسیاب را نساخته بودند. برای این در مقابل گلوله های جونز سینه سپر نکرده بودند. اینها افکار کلوور بودند. افکاری که نمی توانست بر زبان بیاورد. سرانجام چون نتوانست افکارش را بیان کند شروع کرد به خواندن سرود حیوانات انگلستان بقیه حیوانات که دور او نشسته بودند با او هم نوا شدند و سه بار آن را با لحنی آهست و غمگین خواندند تازه برای بار سوم سرود را تمام کرده بودند که اسکویلر به همراه دو سگ از راه رسید او اعلام کرد به فرمان ویژه رفیق ناپلئون از این به بعد سرود حیوانات انگلستان منسوخ شده و خواندن آن ممنوع می باشد. حیوانات از این حرف یک خوردند موریل فریاد زد آخه چرا اسکویلر با لحنی خوشک جواب داد این سرود مال شورش بود اما الان شورش کامل شده اعدام خائنها هم آخرین بخش شورش بود که امروز عصر انجام شد دشمنهای داخلی و خارجی هم شکست خوردن. در سرود حیوانات انگلستان از آرزوهامون برای داشتن یه جامعه بهتر حرف میزدیم امروز به چونین جامعه ای دست پیدا کرده ایم واضحه که دیگه نیازی به خواندن این سرود نیست حیوانات وحشت زده اعتراض کنند اما در این لحظه گوسفندها شروع به بعبع کردن چهار پا خوب دو پا بد کردند چند دقیقه این کار را ادامه دادند و بحث پایان یافت سرود حیوانات انگلستان دیگر شنیده نشد مینیموس شاعر به جای آن سرودی ساخته بود که آغازش این طور بود. مزرعه حیوانات مزرعه حیوانات از من گزندی به تو نخواهد رسید یک شنبه ها موقع برافراشتن پرچم این سرود خانده می میشد اما به نظر حیوانات کلام و موسیقی آن به هیچ وجه به پای سرود حیوانات انگلستان نمی رسید اصل هشتم چند روز بعد که وحشت ناشی از اعدامها کمی فروکش کرد حیوانات به یاد آوردند یا فکر کردن به یاد می آورند که در فرمان ششم از هفت فرمان گفته شده بود هیچ حیوانی حق ندارد حیوان دیگری را بکشد. آنها فکر کردن قتل عام حیوانات مغایر با این فرمان بوده است بنابراین کلوویر از بنجامین خواست تا فرمان ششم را برایش بخواند. بنجامین مثل همیشه از انجام این کار تفره رفت. بنابراین کلوویر از موریل خواست این کار را بکند. موریل فرمان را خواند. هیچ حیوانی حق ندارد بدون دلیل حیوان دیگری را بکشد. حیوانات فکر کردند احتمالا دو کلمه بدون دلیل را فراموش کردند. با این حساب کار خوکها غیرقانونی نبود چون مسلما اعدام خائنان هم دست اسنوبال بدون دلیل نبوده است. آن سال حیوانات سختتر از سال گذشته تلاش کردند. کار باستازی آسیا به بادی با دیوارهایی که دو برابر قبل زخامت داشتند تمام کردن آن سر زمان تعیین شده به همراه کار روزمره مزرعه باعث شده بود. حیوانات مجبور شوند سخت کار کنند. حالا گاهی پیش می که از زمان جانز بیشتر کار می کردند و کمتر قضا می خوردند. صبح های یک شنبه اسکویلر تومارهای بلند بالایی با خود می آورد. برای حیوانات می و اعلام می کرد. میزان تولید محصول در مزرعه تا پانصد درصد افسایش یافته است. حیوانات دلیلی نمیدیدند که حرف او را باور نکنند. خصوصا که حالا خیلی دقیق به خاطر نمی آوردند اوزا قبل از شورش چگونه بود. حیوانات احساس می کردند، به غذا نیاز دارند، نه به این اعداد و ارقام و آمارها. حالا دستورها را اسکویلر یا خوکهای دیگر ابلاغ می کردند. ناپل اون به ندرت هر دو هفته یک بار در میان حیوانات ظاهر می شد. وقتی هم که می آمد، علاوه بر نه سگش که او را همراهی می کردند، جوج خروس سیاهی مثل جارچی ها جلوی او حرکت می کرد. و قبل از اینکه ناپلئون سخنرانیش را آغاز کند قوقودی قوقو می کرد حتی گفته می شود در خانه جای ناپلئون جدا از دیگران است غذایش را تنها می خورد و برای غذا خوردن از ظروف چینی گران قیمت که در بوفه اتاق پذیرایی بود استفاده می کند همچنین اعلام شد از این به بعد علاوه بر دو سالگرد قبلی در روز تولد ناپلئون هم با تفنگ شلیک خواهند کرد دیگر کسی ناپل آن را ناپل آن خالی خطاب نمی کرد. حالا او را کاملا رسمی و با القاب گوناگون صدا می کردند. مثلا پیش وای ما. رفیق ناپل آن. خوک ها دوست داشتند. لغب های دیگری هم برای ناپل آن اختراع کنند. از جمله پدر همه حیوانات. کابوس بشر. حامی گوسفندان، دوست اردک ها. و الغابی از این است. اسکویلر، وقتی از ناپلئون حرف میزد اشک از چشمانش جاری میشد از جان و دل در باب دانش و نیکی ناپل ناپلئون سخن میگفت خصوصاً از دلسوزی و محبت او در حق حیواناتی که هنوز در مزارع دیگر در جهل و اسارت زندگی میکردند دیگر هر اتفاق خوشایندی را به ناپلئون نسبت میدادند میشنیدند که مرغی به دیگری میگفت به برکت راهنمایی پیشوای ما رفیق ناپلئون در شش روز هنشت تا تخم گذاشتم. یا دو گاف که در حال نوشیدن آب بودند میگفتند به برکت وجود نازنین پیشوای ما رفیق ناپل این آب چقدر گوارا شده. این احساسات و عواطف را به بهترین شکل مینیموس شاعر بیان کرده بود. شعری در وصف ناپل آن. ای یاور یتیمان. ای سرچشم شادی. چشمان آرام و نافذ تو روحم را شغل ور می سازند. چنان خورشیدی درخشان در پهنه آسمان ای رفیق نپلان ای بخشنده عشق به تمامی موجودات به برکت وجودت دیگر خبری از گرسنگی نیست. همه حیوانات از بزرگ و کوچک در امنیت کامل بر بستری از کا می آرامند. تو پناه همه آنانی ای رفیق ناپلون تفل شیر خاره من آنگاه که رشد کند باید بیاموزد که به تو ایمان آورد و آنگاه که به سخن درآید کلام آغازینش این باشد ای رفیق ناپلون ناپلون این شعر را پسندید و دستور داد آن را روی دیوار آغال مقابل هفت فرمان بنویسند همچنین اسکویلر با رنگ سفید تصویری از ناپلئون را بالای این شعر نقاشی کرد ناپلئون با استفاده از آقای ویمپر وارد مذاکرات پیچیده‌ای با فردریک و پیلکینگتون شده بود الوار هنوز فروخته نشده بود فردریک تمایل بیشتری برای خرید الوار نشان میداد اما قیمت پیشنهادیش معقول نبود اینکه فردریک و افرادش میخواهند به مزرعه حمله و آسیاب بادی را خراب کنند شایعاتی به گوش می رسید آنها به اینکه حیوانات توانسته بودند چنین آسیابی بسازند حسادت می کردند. گفته می شد اسنوبال هنوز در مزرعه پینچ فیلد به سر می برند در عواط تابستان سه مرغ اعتراف کردند به تحریک اسنوبال قصد کشتن ناپل آن را داشتند آنها بلا فاصله اعدام شدند و برای حفظ جان پیشوا تدابیر امنیتی شدیدی در نظر گرفته شد. شبها چهار سگ در اتاق خواب او نگهبانی میدادند و خوک جوانی به نام پینک آی قبل از ناپل آن غذای او را می چشید تا از مسموم نبودن آن مطمئن شوند. در همین زمان مشخص شد ناپل آن می خواهد الوار را به آقای پیلکینگتون بفروشد. توافقاتی نیز جهت مبادله بعضی از کالاها بین مزرعه حیوانات و مزرعی فاکس بود انجام شد. روابط بین ناپلئون و پیلکینگتون که از طریق ویمپر صورت می تقریباً تقریبا دوستانه شده بود. حیوانات به پیلکینگتون اعتماد نداشتند. اما او را به فردریک ترجیح می‌دادند. چون از فردریک هم متنفر بودند و هم می‌ترسیدند. با سپری شدن تابستان شایعه یک حمله قریب الوقوع و خیانت آمیز قوت می گرفت. می گفتن فردریک قصد دارد با بیست مرد مسلح به مزرعه حیوانات حمله کند. او به قاضی و پلیس رشوه داده بود تا اگر توانست سند مزرعه حیوانات را به دست آورد، به راحتی مالک آن شود و مورد بازخواست قرار نگیرد. به علاوه، داستان‌های ترسناکی از مزرعه پینچفیلد به گوش می‌رسید. که از ظلم و بیرحمی فردریک به حیوانات حکایت میکرد. او از به پیری را تا سر مرگ شلاق زده بود. گاوها را گرسنه نگه میداشت. سگی را کشته و توی کوره انداخته بود. و یکی از سرگرمیهایش این بود که زیر پای خروس ها تیغ ببندد و آنها را به جان هم بیاندازد. شنیدن این چیزها خون حیوانات مزرعه را به جوش می آورد. طوری که میخواستن به مزرعه پینج فیلد حمله کنند. داخل آدم ها را بیاورند و حیوانات را آزاد کنند اما اسکویلر به آنها می گفت بهتر است از هر عمل شتاب ای خودداری کرده و به راهبردهای رفیق ناپل آن اعتماد داشته باشند حیوانات روز به روز بیشتر از فردریک متنفر می شدند. یک صبح یک شنبه ناپل به آقل آمد و اعلام کرد هرگز قصد نداشت الوار را به فردریک بفروشد چون در شعن پیشفایی چون است که بخواهد با چنین بشر پست فطرتی معامله کند. کبوترها که همچنان برای رساندن پیام انقلاب به مزارع مختلف فرستاده می شدند، از رفتن به مزرعه فاکس وود من شدند. همچنین دستور داده شد که به جای مرگ بر بشر از شعار مرگ بر فردریک استفاده شود. در اواخر تابستان، یکی دیگر از تاعته های آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرز بود. اسنوبال شبانه آمده و بزر گندم را با بزر علف هرز مخلوط کرده بود. یک قاز نر در مقابل اسکویلر به همدستی با اسنوبال اعتراف و بلافاصله با خوردن انگور سمی خودکشی کرد. به حیوانات گفته شد در نبرد گاودانی اسنوبال هرگز نشان شجاعت دریافت نکرده و این افسانه را خودش بعد از آن نبرد شایع کرده است. در واقع او در نبرد گاودانی ترسوی بیش نبوده است. حیوانات باز هم گیج شدند. اما اسکویلر خیلی زود توانست آنها را متقاعد کند که حافظه درست کار نمی کند. بالاخره در پاییز با وجود کار مشقت مشقتبار برداشت محصول ساخت آسیاب بادی به پایان رسید. البته ماشین آلات مربوط به آن هنوز نصب نشده بود. و آقای ویمپر در حال مذاکره برای خرید آنها بود با وجود همه سختی ها، بی ها، نداشتن ابزار مناسب و خیانت های سنوبال کار ساخت آسیاب درست در روزی به پایان رسید که از قبل تعیین شده بود حیوانات خسته اما سرشار از غرور دور شاهکار خود می گشتند آسیاب جدید به نظرشان بهتر و زیباتر از آسیاب قبلی بود زخامت دیوارها هم دو برابر قبل بود و دیگر هیچ چیز جز مواد منفجره نمی توانست آن را خراب کند. وقتی به تمام زحماتی فکر می که کشیده بودند، دلسردی هایی که بر آنها غلبه کرده بودند، چرخیدن پرههای آسیاب راه افتادن مولد برق و تفاوتی که در زندگیشان ایجاد می شد، خستگی از تنشان در می رد. آنها با شادی دور آسیاب جست و خیز می و فریاد پیروزی سر میدادند. ناپلئون ناپل اون هم به همراه سگها و جوجه خروسش برای بازدید آسیاب آمد و شخصاً به خاطر این دستاورد بزرگ به حیوانات تبریک گفت. همچنین اعلام کرد نام این آسیاب آسیاب ناپل اون خواهد بود. دو روز بعد حیوانات را برای برگزاری جلسه به آغل فراخواندند. حیوانات وقتی شنیدن ناپل آن الوار را به فردریک فروخته است از تعجب خوشگشان زد فردای آن روز فردریک آمد الوارها را بار زد و برد در واقع در تمام این مدت که به نظر می رسید ناپل آن با پیرکینگتون طرح دوستی ریخته او داشته مخفیانه با فردریک توافق می کرده است روابطشان با فاکس بود قطع و برای پیرکینگتون پیام های فرستاده شد. شعار مرگ بر فردریک به مرگ بر پیرکینگتون تغییر یافت. ناپلئون به حیوانات اطمینان داد شایعات حمله به مزرعه حیوانات کاملا بی اساس است و درباره رفتار ستمگرانه فردریک با حیواناتش بیش از حد اغراق شده است. او گفت ساختن این شایعات هم احتمالاً کار اسنوبال خائن و عواملش بوده است. مشخص شد اسنوبال در پینچفیلد مخفی نشده و اصلا در تمام عمر پایش به آنجا نرسیده است بلکه در رفاه کامل در مزرعه فاکس زندگی می کند و از سالها پیش برای پیلکینگتون کار می کرده است خوکها از حق بازی ناپل آن به وجد آمده بودند ناپل آن با تظاهر به دوستی با پیلکینگتون فردریک را مجبور کرده بود قیمت را دوازده پوند بالاتر ببرد اسکویلر گفت که از آن مهمتر زیرکی ناپل است که به هیچ کس اعتماد نمی کند. حتی فردریک. فردریک میخواست در ازای الوار چیزی به نام چک به آنها بدهد اما ناپل آن قبول نکرده و قبل از جابجایی الوار از او اسکناس های پنج پوندی گرفته است مقدار پول به دست آمده تنها برای خرید ماشین‌آلات آسیاب کافی بود بعد از حمله الوار جلسه ویژه‌ای در آغول تشکیل شد تا حیوانات اسکناسهای دریافت شده از فردریک را ببینند ناپلئون هر دو ادلش را به سینه ویخت و در حالی که لبخند میزد. روی کاه های لم داده بود اسکناسها ها کنار او توی یک ظرف چینی که از آشپزخانه آورده بودند گذاشته شده بود حیوانات به صف می رفتند و به اسکناس ها نگاه می کردند. باکسر دماغش را جلو برد و اسکناس ها را بو کشید از برخورد نفس او اسکناسها ها تکان خوردند و خش خش دادند سه روز بعد قوغای وحشتناکی شد ویمپر با چهرهی رنگ پرید از راه رسید. دو دوچرخش را توی حیات انداخت و به طرف ساختمان دوید. لحظه بعد صدای فریاد خشمگین ناپل اون به آسمان بلند شد. خبر به سرعت در مزرعه پخش شد. اسکناس ها جعلی بودند. فردریک الوار را مفت به چنگ آورده بود. ناپلئون حیوانات را جمع کرد و با صدایی ترسناک فردریک را به مرگ محکوم نمود. او گفت اگر فردریک را گیر بیاورد، زنده زنده در آب جوش خواهد انداخت. همچنین هشدار بعد از این عمل خائنانه، باید هر لحظه انتظار حمله را نیز از سوی فردریک و افرادش داشته باشند. بنابر این در همه مسیرهای منتهی به مزرعه مستقر شدند. همچنین چهار کبوتر که حامل پیام سول بودند، به فاکس وود اعزام شدند تا دوباره روابط دوستانه‌ای با پیلکینگتون برقرار شود. صبح روز بعد حیوانات در حال صبحانه خوردن بودند که نگهبانها خبر حمله فردریک و افرادش را اعلام کردند حیوانات جسورانه به سوی آدم ها حمله کردند اما این بار پیروزی بر آدمها مثل نبرد گاودانی آسان نبود آدمها پانزده نفر بودند نصفشان هم تفنگ داشتند و از پنجاه قدمی حیوانات را با تیر میزدند آنها که از پس توفنگ بر نمی آمدند، با وجود ترغیب ناپل اون و باکسر به جنگ مجبور به اغب نشینی شدند و در خانه پناه گرفتند. تعدادی از آنها زخمی شده بودند. حیوانات از درز در و سوراخ دیوار بیرون را نگاه می کردند. چراگاه آسیاب در دست دشمن بود. برای لحظه ای ناپل آن هم ابتکار عمل را از دست داده بود. بدون آنکه حرفی بزند به این سو آن سو می رفت. دمش سیخ شده بود و به مزرعه فاکس بود نگاه می کرد تا شاید پیلکینگتون برایشان کمک بفرستد. کبوترهایی که دیروز به فاکس فرستاده شده بودند برگشتند. تکه کاغذی از طرف پیلکینگتون آورده بودند که روی آن نوشته شده بود. خودت کردی که لعنت بر خودت باد. فردریک و افرادش دور آسیاب ایستاده بودند. حیوانات که حسابی ترسیده بودند آنها را تماشا و پچ پچ کرد. دوتا از آنها پتک و دیلم در دست داشتند و می‌خواستند آسیاب را خراب کنند. ناپل اون فریاد زد: امکان نداره. دیوارها زخیم‌تر از اون هستند که بتونن خرابش کنن. ظرف یک هفته هم نمیتونن آسیاب را خراب کنن. شجاع باشین رفقا. بنجامین که حرکات آدمها را زیر نظر داشت، دید آنها دارن سوراخی در پای آسیاب حفر می‌کنند. آهسته پوزه‌ی درازش را داد و گفت: نمی‌بینین چه کار دارن می‌کنن؟ الان توی اون سوراخ باروت میریزن و آسیاب می‌ره هوا حیوانات وحشت زده منتظر بودند ببینند چه اتفاقی می‌افتد خارج شدن از پناهگاه غیر ممکن بود بعد از چند دقیقه آدمها در جهات مختلف شروع به دویدن کردند و از آسیاب دور شدند صدای انفجار مهیبی به گوش رسید کبوترها در هوا چرخ زدند همه حیوانات غیر از ناپلئون روی زمین خوابیدند و صورتشان را پنهان کردند وقتی بلند شدند، ابر عظیمی از دود سیاه دور آسیاب را گرفته بود. باد کم کم دود را کنار زد. اثری از آسیاب نبود. با دیدن این صحنه ترس حیوانات ریخت و جای خودش را به خشم داد. فریاد انتقام سر دادند و همه با هم به طرف دشمن حمله کردند. این بار به گلوله ها که مثل تگرگ به سویشان می توجهی نمی کردند. نبردی تلخ و وحشیانه بود، آدمها به شلیک ادامه دادند و وقتی حیوانات به آنها نزدیک شدند با چماق و چکمه هایشان به جان آنها افتادند یک گاو، سه گوسفند و دو گاز کشته شدند تقریبا همه زخمی شده بودند حتی ناپلئون هم که از عقب فرمانها را صادر میکرد مورد حسابته گلوله قرار گرفت و دمش زخمی شد آدمها هم آسیب دیدند سر سه نفرشان با ضربه سوم باکسر شکست یکی دیگر با ضربه شاخ گاوی به شکمش هلاک شد جسی و بلوبل شلوار یکی دیگر از آنها را پاره کردند نه سگ ناپل مخفیانه از کنار پرچین جلو آمدند و یکباره باره به آدمها حمله کردند آنها وحشت کردند چون داشتن محاصره می شدند. فردریک فریاد زد که اگر می توانند فرار کنند لحظه بعد دشمن بزدل از ترس جانش پا به فرار گذاشت حیوانات آنها را دنبال و آخرین زربات را به آدمها وارد کردند و آنها را از لابلای پرچین خاردار بیرون کرد پیروز شده بودند اما خسته و زخمی بودند به طرف مزرعه برگشتند جسد رفقایشان که روی علف افتاده بودند اشک را از چشمهایشان جاری کرد به سمت جایی رفتند که آسیاب را در آن بنا کرده بودند برای مدتی سکوتی اندوه بار حاکم شد بله آسیاب ویران شده بود حتی از شالوده بنا هم چیزی باقی نمانده بود این بار نمیتوانستند مثل دفعه پیش از سنگ ها استفاده کنند. قدرت انفجار به حدی زیاد بود که سنگ ها را چند صد متر آن طرف در پرتاب کرده بود. انگار آسیاب هرگز وجود نداشته است. ناگهان سر و کله پیدا شد که موقع جنگ به طرز عجیبی ناپدید شده بود. او به طرف حیوانات آمد و شروع به جست و خیز و شادی کرد. ناگهان از سمت ساختمان صدای شلیک تفنگ تشریفات به گوش رسید. باکسر پرسید این برای چی بود اسکویلر فریاد زد برای جشن پیروزی باکسر گفت کدوم پیروزی زانوهایش خونریزی داشتند یکی از نعل‌هایش کنده شده بود سمش چاک خورده بود و چند تا ساچمه توی پاهایش جا خوش کرده بودند اسکویلر جواب داد کدوم پیروزی رفیق مگه ما دشمن رو از خاکمون خاک مقدس مزرعه حیوانات بیرون نکردیم اما اونها سیب بادی رو منفجر کردند. دو سال برای ساختش زحمت کشیده بودیم اسکویلر گفت چه اهمیتی داره؟ یا سیاب دیگه میسازیم؟ اصلا اگه بخوایم ش تا سیاب جدید میسازیم تو متوجه نیستی که امروز چه کار بزرگی کردیم رفیق؟ دشمن خاک ما رو کرده بود اما الان به برکت رهبری رفیق ناپلئون اون؟ مزره من رو پس گرفتیم باکسر گفت: پس چیزی رو گرفتیم که قبلا داشتیمش اسکویلر گفت: و این یعنی پیروزی؟ لنگ لنگان وارد حیات شدند. ساچمهها زیر پوست پای باکسر سوزش دردناکی ایجاد می کرد. باکسر کار دشوار باستازی آسیا به بادی را پیش روی خود می دید و از حالا خود را در حال انجام آن تصور می کرد. برای اولین بار با خود فکر کرد. اکنون یازده سال از عمرش گذشته و شاید از لاتش دیگر توان سابق را نداشته باشند. وقتی حیوانات پرچم سبز را بر دیدند هفت بار با تفنگ شلیک شد و سخنرانی و تبریکات ناپلئون را شنیدند باورشان شد که به پیروزی بزرگی دست یافتند. اجساد قربانیان جنگ با احترام طی مراسمی تشی و به خاک سپرده شد باکسر و کلوور ارابهای را به عنوان نشکش میکشیدند و ناپلئون پیش جمعیت حرکت میکرد دو روز را به جشن پیروزی اختصاص دادند سرودها خوانده و خطاب‌هایی ایراد شد چندین بار با تفنگ شلیک کردند به هر حیوان یک سیب داده شد به هر پرنده سیگرم گندم و هر سگ سک سه نام این جنگ را نبرد آسیاب نامیدند ناپلئون نشان جدیدی که به صورت بیرق سبز بود ابداع و به خود اهدا کرد و در خلال این جشنها ها موضوع جعلی بودن اسکناس ها به کلی به فراموشی سپرده شد. چند روز بعد خوک ها در زیر زمین خانه یک جعبه پر از ویسکی پیدا کردند. موقعی که برای اولین بار وارد خانه شده بودند این جعبه از چشمشان پنهان مانده بود. آن شب از خانه صدای بلند آواز خوک ها به گوش می رسید. جالب اینکه که یا آوازشان بخش هایی از سروده حیوانات انگلستان را هم میشد شنید. حیوانات تعجب کرده بودند. حدود ساعت نیم شب ناپل اون را دیدند. او در حالی که کلاه آقای جونز را به سر داشت از در پشتی بیرون آمد. دور حیات دوید و دوباره به خانه برگشت. صبح سکوت سنگینی خانه را در بر گرفته بود. اثری از خوک ها نبود. بالاخره حوالی ساعت نه سر و کله اسکویلر پیدا شد. آهسته راه می افسرده به نظر می رسید. چشمایش خست و دمش آویزان بود. معلوم بود که به بیماری سختی مبتلا شده است. حیوانات را جمع کرد و گفت خبر وحشتناکی دارد. رفیق ناپل اون دارد می میرد. صدای و زاری حیوانات بلند شد. با چشم هایش کالود از یکدیگر دیگر می اگر رهبرشان را از دست بدهند چه باید بکنند؟ شایعه شد که اسنوبال بالاخره موفق شده غذای ناپل آن را مسموم کند. ساعت یازده اسکویلر آمد و گفت رفیق ناپل به عنوان آخرین فرمان گفته است مجازات نوشیدن الکل اعدام است. شب حال ناپل اون بهتر شد و صبح روز بعد اسکویلر اعلام کرد حال پیشوار به بهبودی است. و میتواند دوباره سر رشته امور را در دست بگیرد. روز بعد ناپل اون به آقای ویمپر دستور داد از ویلینگدون کتاب‌هایی درباره آبجوسازی و تقطیر تهیه کند. یک هفته بعد ناپل اون دستور داد چراگاه کوچک پشت باغ را که قرار بود به حیوانات بازنشسته اختصاص یابد، شخم بزنند. اول گفتند خاک چراگاه دچار فقر شده و باید دوباره بذرفشانی شود. اما خیلی زود مشخص شد ناپل آن قصد دارد جو بكارد. در همین موقع اتفاق عجیبی افتاد که کسی از آن سر در نیاورد. نیمه شب بود که حیوانات صدای افتادن چیزی را شنیدند و از آقلشان بیرون آمدند. شبی محتابی بود. پای دیوار آقل بزرگ که هفت فرمان رویش نوشته شده بود، نردبان شکسته ای افتاده و اسکویلر بی بیحال روی زمین کنار نردبان ولو شده بود. یک فانوس یک قلمو و یک سطل رنگ سفید واژگون شده هم روی زمین دیده میشد. سکها فورا دور اسکویلر حلقه زدند و همینکه که حالش جا آمد و توانست راه برود او را به خانه برگردندند. هیچ هیچکس نفهمید که موضوع از چه قرار است؟ جز بنجامین که پوزش را تکان داد اما چیزی به کسی نگفت. چند روز بعد که موریل هفت فرمان را میخوااند، حیوانات متوجه شدن سه کلمه از فرمان پنجم را فراموش کردند. آنها فکر میکردند فرمان پنجم به این صورت است: هیچ حیوانی نباید الکل بنوشد. در حالی که روی دیوار نوشته شده بود: هیچ حیوانی نباید بیش از حد الکل بنوشد. وصل نهم. مدت ها طول کشید تا سوم شکاف خورده باکسر خوب شود حیوانات درست روز بعد از جشن پیروزی کار باسازی آسیاب را شروع کردند باکسر حتی یک روز هم همکار را تعطیل نکرد نمیخواست کسی درد کشیدنش را ببیند فقط شبها به کلوور میگفت که درد سومش او را خیلی آزار میدهد کلوور به اسم او مرهم گیاهی میمادید که آن را از طریق جویدن گیاهان درست کرده بود. کلاور و بنجامین به باکسر میگفتند بهتر است کمتر کار کند و اینقدر به خود فشار نیاورد. کلاور می‌گفت یه اسب تا ابد که نمیتونن کار کنند. اما این حرفها به خرج باکسر نمیرفت. میگفت آرزویش این است قبل از رسیدن به سن بازنشستگی راه افتادن آسیاب بادی را ببیند. اوایل که قوانین مزرعه حیوانات تازه به تصویب رسیده بود سن بازنشستگی برای اسبها و خوکها دوازده برای گاوها چهارده برای سگها نه برای گوسفندان هفت و برای مرغها و غازها پنج سالگی تعیین شده بود هرچند هنوز هیچیک از حیوانات به سن بازنشستگی نرسیده بودند اخیرا درباره این موضوع بحثهای فراوانی میشد حالا که زمین کوچک کنار باغ به کشت جو اختصاص داده شده بود، میگفتند قرار است گوشه از چراگاه بزرگ را دیوار کشیده و در اختیار بازنشسته ها قرار دهند. گفته میشد مقرری عصب های بازنشسته روزی دو کیلو غله است. در زمستان هم هفت کیلو یونجه به اضافه یک هویج یا سیب در روزهای تطیل. اواخر تابستان سال آینده باکسر به سن دوازده سالگی میرسید و با بازنشسته می شد. زندگی به سختی میگذشت زمستان امسال هم مثل زمستان سال گذشته سرد بود و غذا کمتر جیره غذایی همه حیوانات جز خوبک و سگها دوباره کاهش یافت اسکویلر میگفت مساوی بودن بیش از حد جیره های غذایی خلاف اصول حیوانگرایی است او به هر صورت حیوانات را قانع می کرد که کم بود غذا وجود ندارد و فقط جیره ها تبدیل شده اند اسکویلر همیشه از واژه تعدیل به جای کاهش استفاده می کرد. اما در مقایسه با روزگار جونز پیشرفت شایانی حاصل شده بود. اسکویلر تند و تند با صدای بلند آمار را برای حیوانات قرائت می کرد تا به آنها ثابت کند. الان نسبت به زمان جانز جو و یونجه و شلغم بیشتری دارند. ساعتهای کمتری کار می کنند کیفیت آب آشامیدنی بهتر شده است عمرشان طولانی تر شده است تعداد بیشتری از نوزادان زنده می‌مانند. کاه بیشتری در استبل هست و ککها کمتر آنها را اذیت می کنند. حیوانات همه حرفهای او را باور می کردند. راستش خاطره جونز و کارهایش تقریبا از ذهن حیوانات محف شده بود زندگی امروزشان سخت و طاقت فرسا بود اغلب گرسنه نبودند سردشان بود معمولا غیر از زمانی که خواب بودند در بقیه ساعت کار میکردند اما میاندیشیدند. بیشک آزاد در زمان جانز بدتر از این بوده است در آن زمان حیوانات برده بشر بودند اما امروز آزاد هستند اسکویلر این تفاوت را به خوبی برایشان تشریح میکرد حالا باید به حیوانات بیشتری غذا میدادند پاییز چهار خوک ماده تقریبا همزمان زایمان کردند و, و یک بچه خوک به دنیا آوردند. بچه خوک ها همه رنگ بودند و از آنجا که ناپل اون تنها خوک مزرعه بود میشد شد زد که نصبشان به چه کسی می رسد. اعلام شد بعد از خرید آجر و تیر در باغ خانه مدرسه اهداس خواهد شد و تا آن موقع بچه خوک ها در آشپزخانه زیر نظر ناپل اون آموزش می و در باغ ورزش می کنند. همچنین اعلام شد بچه خوکها نباید با بچه های حیوانات دیگر بازی کنند. قانون دیگری تصویب شد که می گفت اگر یک خوک و حیوان دیگری در راه به هم برسند، آن حیوان باید کنار برود و راه را برای خوک باز کند. همچنین همه خوک ها از هر ای که برخوردار باشند، باید روزهای یک شنبه یک روبان سبز به دمشان ببندند تا از بقیه حیوانات متمایز شوند. مزرعه سال خوبی را پشت سر گذاشته بود اما باز هم کم بود پول داشتند باید برای مدرسه آجر و ماسه و آهک می خریدند همینطور باید برای آسیاب ماشین آلات لازم تهیه می بعدش نوبت می رسید به نفت چراغ و شم برای خانه شکر برای ناپلون او شکر را برای دیگر خوک ها ممنوع کرده بود تا چاق نشوند و مرزومات دیگر از قبیله ابزار، میخ، نخ، زغال، سیم، آهن و بیسکویت برای سگها. برای تأمین پول مورد نیاز بخشی از محصول یانجه و سیب زمینی را فروختند و قرارداد فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافت. این مسئله باعث شد جوجه های جدید به دنیا نیایند و جمعیت مرغ ها افزایش پیدا نکند. جیره ها که در ماه دسامبر کاهش یافته بود در ماه فوریه باز هم کمتر شد. روشن کردن فانوس در استبل ممنوع شد تا در مصرف نفت صرفه جویی شود. اما خوکها در رفاه کامل زندگی می میکردند و هر روز چاق تر میشدند. یک روز عصر در اواخر ماه فوریه بوی گرم و خوش و اشتها آوری به مشام حیوانات رسید که تا به حال آن را حس نکرده بودند. بو از اتاق زیر آشپسخانه می آمد که از زمان رفتن جونز بی استفاده مانده بود. یکی از حیوانات گفت که این بوی یه جوی پخته شده است. حیوانات گرسنه بو کشیدند و با خود فکر کردند. شاید امشب شام غذای گرم دارند. اما خبری از غذای گرم نشد و یک شنبه بعدی اعلام شد کل محصول جو به ها تعلق خواهد داشت. زمین کنار باغ از همین حالا به کشت جو اختصاص داده شده بود و به زودی این خبر در مزرعه پیچید که هر خوک روزانه نیم لیتر سهمیه آب دارد سهم آن 4 لیتر در روز بود که همیشه توی ظروف چینی مخصوص ریخته و به حضورش برده می‌شد با وجود همه سختی‌ها زندگی امروز از شکوه بیشتری نسبت به قبل برخوردار بود سرودها، ها، و مراسم بیشتری اجرا شد ناپل آن دستور داده بود حیوانات هفته یک بار به صورت خودجوش تظاهرات کنند و پیروزی های مزرعه حیوانات را جشن بگیرند در وقت مقرر، حیوانات دست از کار میکشیدند و با آرایش نظامی دور مزرعه رژه میرفتند. خوک جلو بودند، پشت سرشان اسبها، ها،, ها، گوسفندها و در آخر هم پرنده ها. سکها دو طرف جمعیت حرکت می‌کردند و جوجه خروس سیاه ناپلئون هم جلودار بود. باکسر و کلوور پرچم سبزی با نشان سم و شاخ حمل می‌کردند که زیرش نوشته شده بود: "زنده باد رفیق ناپلئون". شعرهایی در متح ناپلئون خوانده می‌شد و اسکویلر آماری از پیشرفت و افسایش تولید محصولات ارائه می‌کرد و گهگاه تیری هم شلیک می‌شد. گوسفندها بزرگترین طرفداران ترین تظاهرات خود جوش بودند و اگر حیوانات شکایت می که این کارها اطلاف وقت است و این همه ایستادن در سرما چه معنایی دارد گوسفندان با صدای بلند چهار پا خوب دو پا بد را به و آنها را ساکت می کردند. البته بیشتر حیوانات از این مراسم لذت می بردند. و هر حال آنها ارباب خود بودند و کاری که انجام می دادند هم برای خودشان بود. بنابراین با آمار و ارقام سکویلر، سرودها، همایشها، احتزاز پرچم، صدای قررش تفنگ و بانگ جوجه خروس حیوانات می توانستند شکم خالی خود را برای مدتی فراموش کنند. در ماه آوریل، مزرعه حیوانات اعلام جمهوری کرد و انتخاب رئیس جمهور به یک ضرورت تبدیل شد. فقط یک نامزد انتخاباتی وجود داشت که ناپل آن بود و با بیشترین رأی به مقام ریاست جمهوری رسید. همان روز اعلام شد مدارک جدیدی به دست آمده که جزئیات بیشتری را درباره همدستی اسنوبال با جونز فاش میسازد مشخص شد نه تنها اسنوبال میخواسته با حیله جنگی باعث شکست حیوانات در نبرد گاودانی شود بلکه در جنگ طرف جونز بوده و علیه حیوانات میجنگیده است در واقع او رهبری نیروهای بشر را به عهده داشته و با شعار زنده باد بشر پا به میدان نبرد گذاشته بوده. همچنین معلوم شد زخم پشت اسنوبال را که اکنون حیوانات تصویر مبهمی از آن در خاطرشان بود، دندانهای ناپل اون ایجاد کرده بود. در عواست تابستان، سرکلی مزز، کلاق اهلی مزرعه بعد از چند سال دوباره پیدا شد. هیچ تغییری نکرده بود، همچنان دست به سیاه و سفید نمی زد و داستانهای از سرزمین شیر و اصل نقل می کرد. روی کنده‌ی درختی مینشست. بالهای سیاهش را به هم می‌زد. با منقار بزرگش آسمان را نشان می‌داد و با تشریفات خاصی می‌گفت: رفقا، سرزمین شیر و اصل اون بالا، درست پشت اون ابر سیاهی که می بینین قرار گرفته. اون سرزمین پر از شادیه. همون جایی که ما حیوانات بیچاره بعد از این همه کار و سختی به اونجا خواهیم. ره. موزز ادعا می کرد که یک بار وقتی در ارتفاع بسیار بالا پرواز کرده آن سرزمین را دیده است سرزمین پر از یونج و شب در با هایی که از آنها کیک و کلوچه می روید. بسیاری از حیوانات حرفهای او را باور می کردند. آنها گرسنه بودند و سخت کار می کردند. حقشان بود که به جای دیگری با شرایط بهتر بروند. رفتار خوک ها با موزز عجیب بود. آنها میگفتند داستان داستانهای او درباره سرزمین شیر و اصل دروغ محز است با این وجود اجازه دادند در مزرعه بماند و کاری هم انجام ندهد حتی روزی یک پیمان آبجو هم برایش در نظر گرفتند باکسر بعد از اینکه سمش کاملا خوب شد سختتر از گذشته شروع به کار کرد در واقع آن سال همه حیوانات مثل برده ها کار کردند علاوه بر کارهای روزمره مزرعه و با سازی آسیاب بادی باید برای بچه خوک ها هم مدرسه میساختند. کار ساخت مدرسه در ماه مارس آغاز شد. ساعتها کار طاقت فرسا آن هم با جیره غذایی بخور و نمیر واقعا غیرقابل تحمل بود. اما اینها هیچ خللی در اراده باکسر ایجاد نمیکردند. ظاهرش کمی شکسته شده بود. پوستش درخشش قبل را نداشت و کفلهایش لاغر شده بودند. میگفتند با آمدن بهار، و رو ایدن علف های تازه وضع باکسر بهتر می شود. اما بهار آمد و باکسر چاقتر نشد. گاهی اوقات کشیدن سنگ ها در معدن فشار فوقدادهی به از وارد می کرد. و به نظر می رسید تنها اراده اوست که باعث می شود از پس این کار براید. در این موقع حیوانات می که می جمله من بیشتر کار خواهم کرد را بگوید. اما صدایش در نمی آید. باز هم بنجمین و کلوور به او هشدار میدادند که باید بیشتر مراقب سلامتیش باشد. اما باکسر توجهی نمی کرد. تولد دوازده سالگیش نزدیک بود. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت این بود که تا قبل از بازنشستگی سنگ لازم برای ساختن آسیاب فراهم شود. حوالی غروب خبر به هم خوردن حال باکسر در مزرعه پیچید. او به تنهایی رفته بود تا سنگ جمع کند، و به محل بنای آسیاب ببرد خبر صحت داشت چند دقیقه بعد دو کبوتر سراسیمه از راه رسیدند و این خبر را دادند باکسر افتاده به پهلو روی زمین دراز کشیده و نمیتونه بلند شه تقریبا نیمی از حیوانات مزرعه به سرعت خود را به تپه آسیاب رساندند باکسر بین چوبهایی که او را به عراب وصل کرده بود روی زمین افتاده و از حال رفته بود آنقدر بی حال بود که حتی نمیتوانست سرش را بلند کند چشمهایش بیفروغ بودند و پهلوهایش خیس عرق. نوار باریکی از خون از دهانش بیرون زده بود. کلاور کنار او زانو زد و پرسید: "باکسر، چی شده؟" باکسر با صدای ضعیفی جواب داد: ریا ها مشکل پیدا کردن. اما نگران نباشین. مسئله مهمی نیست. فکر کنم بدون من هم بتونین کار ساخت آسیاب رو تموم کنین." به اندازه کافی سنگ جمع شده به هر حال قرار بود یه ماه دیگه بیشتر کار نکنم راستش مدتی منتظر بازنشستگی هستم شاید اجازه بدن بنجامین هم که دیگه سنی ازش گذشته همزمان با من بازنشست بشه و با هم دوران بازنشستگیمون را رو سپری کنیم کلاور گفت باید فورا کمک بیاریم یکی برو به اسکویلر بگه چه اتفاقی افتاده. غیر از کلوور و بنجامین، بقیه حیوانات به سمت خانه دویدند تا به اسکویلر خبر بدهند. بنجامین کنار باکسر نشسته بود و بدون آنکه حرفی بزند با دم بلندش مگس ها را از او دور می کرد. بعد از یک ربع ساعت اسکویلر با چهره نگران از راه رسید و گفت که رفیق ناپل آن از شنیدن اتفاقی که برای یکی از کارگران فوقالعاده با وفای مزرعه افتاده بی نهایت متاسف شده و ترتیب کارها را داده تا باکسر برای مداوا به بیمارستان ویلینگدون منتقل شود کنار آمدن با این مسئله برای حیوانات سخت بود تا حالا غیر از مولی و اسنوبال حیوان دیگری از مزرعه خارج نشده بود و حیوانات نمی‌خواستند رفیق بیمارشان به دست بشر بیفتد. با این وجود اسکویلر به راحتی آنها را راضی کرد که جراح دامپزشک ویرینگدون بهتر از آنها می میتواند بیماری باکسر را درمان کند. نیم ساعت بعد حال باکسر کمی جا آمد و به زحمت توانست بیستد. لنگ لنگان به سمت استبل رفت. کلوور و بنجامین رخت خوابی از کاه برای او آماده کرده بودند. دو روز بعدی را باکسر در استبل ماند و استراحت کرد. خوکها داروی صورتی رنگی که از کمد سرویس بهداشتی پیدا کرده بودند برای او فرستادند کلوور روزی دوبار بعد از غذا آن دارو را به باکسر میخورند و شبها هم پیش او می ماند و با او حرف میزد بنجامین هم مگزها ها را از او دور میکرد. باکسر می گفت، نگران اتفاقی که افتاده نیست و اگر سلامتیش را بازیابد یابد سه سال دیگر عمر می کند و روزگار آرامی را در گوشه چراگاه میگذرانند مطالعه می میکند و بقیه عمرش را صرف یادگرفتن بقیه حروف الف با خواهد کرد. البته کلوور و بنجامین فقط بعد از ساعات کاری می توانستند کنار باکسر بمانند. حوالی ظهر بود که یک بارکش برای بردن باکسر از راه رسید. حیوانات زیر نظر یک خوک مشغول کندن علف های هرزه زمین شلغم بودند که ناگهان دیدند بنجامین از سمت ساختمان ها به تاخت سویان ها میآید و با صدای بلند ار ار می کند اولین بار بود که حیوانات بنجامین را حیجان زده می دیدند همچنین اولین بار بود که کسی تاختن او را می دید بنجامین فریاد زد به جنبین به جنبین دارن باکسر را می برن! حیوانات بدون آنکه منتظر دستور خوک بمانند کار را رها کرده و به سمت ساختمان ها دفیدند یک بارکش بزرگ دو اسبه توی حیات بود که کنارش چیزهایی نوشته شده بود. مردی که به نظر فردی موزی می آمد و کلاه لبه گردی بر سر داشت روی صندلی راننده نشسته بود. استبل باکسر خالی بود. حیوانات دور بارکش جمع شدند و همه با هم گفتند خدا حافظ باکسر، خدا حافظ. بنجامین فریاد زد احمقا، احمقا سمهای کوچکش را به زمین کبید اهم اقاها مگه نمی بینین کنار بارکش چی نوشته؟ حیوانات ساکت شدند موریل به آهستگی شروع کرد به خواندن کلمات بنجامین او را کنار زد و در میان سکوت مرگباری که حاکم شده بود نوشته ها را خواند. آلفرد سیمونز مسئول کشدار عصف ها و ساخت چسب در ویلینگدون. دلال پوست و استخوان تهیه کننده ی لانه برای سگها میدونید این یعنی چی؟ میخوان لاشه باکسر رو بفروشن آه از نهاد حیوانات بلند شد در همین لحظه راننده شلاقی به از پا زد و حرکت کرد حیوانات دنبال بارکش راه افتادند و فریاد زدند بارکش سرعت گرفت کلوور سعی کرد خود را به آن برساند فریاد زد باکسر! باکسر! باکسر! باکسر! باکسر که هیاهوی بیرون را شنیده بود سرش را از پنجره کوچک پشت بارکش بیرون آورد. کلوور با صدای زده فریاد زد: باکسر بیا بیرون! سری بیا بیرون، دارن میبرن جونت رو بگیرن. همه حیوانات فریاد زدند: باکسر بیا بیرون، بیا بیرون. اما هر لحظه بر سرعت بارکش افسوده میشد و حیوانات بیشتر عقب میماندند. باکسر که تازه فهمیده بود موضوع از چه قرار است با سمهایش به دیوارهای بارکش ضربه زد. در جوانی چند ضربه سم او کافی بود تا این بارکش را خرد و خاکشیر کند. اما افسوس که اکنون قوای او تحلیل رفته بود. بعد از چند لحظه صدای ضربات سم او زعیف و تر شد و به کلی از بین رفت. حیوانات با ناامیدی از دو اسب بارکش تقاضا کردند که بیستن. رفقا! رفقا! برادرتون رو به سوی مرگ نبرین! اما اند و اصب خرفت اصلا متوجه نبودند که چه اتفاقی دارد میافتد. گوشهایشان را خواباندند و بر سرعتشان افزودند. صورت باکسر دیگر دیده نمیشد. حیوانات خیلی دیر به فکر بستن دروازه افتادند. بارکش از مزرع خارج و بعد از مدت کوتاهی در جاده ناپدید شد. دیگر کسی باکسر را ندید. سه روز بعد اعلام شد با وجود تمام مراقبت ها باکسر در بیمارستان ویلینگدون درگذشته است. اسکویلر این خبر را به حیوانات داد و ادعا کرد در آخرین لحظات عمر باکسر کنارش بوده است. اسکویلر در حالی که عشقایش را پاک می کرد گفت متأثر کننده ترین ای بود که به عمرم دیدم. دم آخری کنارش بودم. نمیتونست حرف بزنه. به زحمت با صدایی زعیفی توی گوشم گفت نراهم که از این دنیا میرم اما هنوز کار ساخت آسیاب تموم نشده رفقا محکم به پیش بریم زنده باد مزرعه حیوانات زنده باد رفیق ناپلئون همیشه حق با ناپلئونه این ها آخرین کلمات اون بودن رفقا چهره سکویلر عوض شد لحظه سکوت کرد و با چشم ریزش نگاهی به حیوانات انداخت بعد ادامه داد شنیدم بردن باکسر شایع احمقانی رواج پیدا کرده بعضی از حیوانات عبارت کشتار اسب رو روی بارکش دیدن و فکر کردن ما باکسر رو به سوی مرگ فرستادیم. چون این حماقتی باور نکردنیه. رفیق ناپل اون رو اینجوری شناختین؟ مسئله خیلی ساده است. اون بارکش قبلا مال کشتارگاه بوده. اما بعدش یه دامپزش اون رو خرید و وقت نکرده روش روشو پاک کنه. به همین دلیل این سو تفاهم ایجاد شده. با شنیدن این حرف اندوه حیوانات تا حد بسیاری تسکین یافت. وقتی اسکویلر توضیحات بیشتری از جزئیات مرگ باکسر ارائه داد و گفت چه مراقبت‌هایی از او شده و چه داروهای گران قیمتی ناپلئون برایش تهیه کرده شک حیوانات به کل از بین رفت و با خود اندیشیدند حداقل رفیقشان با دل خوش از این دنیا رفته است ناپلئون شخصا در مراسم روز به شرکت کرد و خطابه قرائی در وصف باکسر ایراد کرد برامون مقدور نبود که جنازه را به برگردانیم ولی یه حلق گل آب رومند از برگ بود درست کردیم و فرستادیم تا روی قبر باکسر بذارن چند روز دیگه هم مراسم یاد بوده با شکوهی به افتخار باکسر برگزار خواهیم کرد در پایان ازتون میخوام دو شعار محبوب باکسر رو سرمشق خودتون قرار بدین من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپل اونه. در روز تعین شده برای یاد بود خاربارفروشی خاربار فروشی از راه رسید و یک جعبه چوبی بزرگ تحویل داد آن شب صدای آواز، دعوا و شکستن ظروف از خانه به گوش می رسید و تا ساعت یازده ادامه داشت روز بعد تا ظهر خبری از خوک ها نبود می گفتند خوک ها از منبع نامعلومی پول به دست آورده و یک جعبه دیگر ویسکی خریده فصل دهم ده سالها گذشت، فصل ها آمدند و رفتند و عمر کوتاه حیوانات سپری شد. زمانی رسید که دیگر کسی روزگار قبل از شورش را به خاطر نمیاد. جز کلوور، بنجامین، مزز و چند تا از خوک موریل مرد، بلوبل و جسی و پینچر هم مردند. جونز هم در میخانهای در گوشه دیگری از کشور درگذشت اسنوبال به کلی به فراموشی سپرده شد. باکسر هم فراموش شد و فقط تعداد کمی از دوستانش او را به خاطر می آوردند. کلوور مادیان پیری شده بود که مفاصلش خشک و چشمهایش کم سو بودند. دو سال هم از سن بازنشستگیش گذشته بود. اما تا کنون هیچ حیوانی در مزرعه بازنشسته نشده بود. خیلی وقت بود که دیگر از بحث اختصاص گوشه از چراگاه به حیوانات نشسته خبری نبود. ناپل اون حالا یک خوک بالغ 150 کیلو گرمی بود. اسکویلر انقدر چاق شده بود که چشمهایش به زور باز می شدند. بنجامین تغییر چندانی نکرده بود. فقط موهای دور پوزش کمی سفید شده بودند. بعد از مرگ باکسر، بنجامین حتی از گذشته هم عبوز و کم شده بود. جمعیت مزرعه افزایش یافته بود. هرچند این افزایش جمعیت به میزانی نبود که انتظار میرفت. حیوانات بسیاری به دنیا آمدند که شورش برایشان فقط افسانهای مبهم بود که از دهان این و آن شنیده بودند. حیواناتی هم خریداری شدند که اصلاً چیزی از شورش به گوششان نخورده بود. حالا مزرعه، غیر از کلوور سه اسب دیگر داشت. عصب خوب و درشت هیکلی بودند. خوب کار میکردند اما خیلی احمق بودند. در یادگیری حروف الف با هیچ کدام از حرف ب جلوتر نرفتند. هرچه درباره شورش و اصول حیوانگرایی به آنها گفته میشد میپذیرفتند خصوصا از کلوور که جای مادرشان بود. اما به نظر می رسید چیزی از حرف های کلوور نمیفهمند مزرعه پر رونختر و سازمان یافته تر شده بود. آن را با خرید دو قطع زمین از آقای پیلکینگتون توسعه داده بودند. آسیاب بادی را بالاخره راه انداخته بودند. مزرعه یک خرمنکوب و یک بالابر هم داشت. همچنین ساختمانهای جدیدی به ساختمانهای قبلی افسوده شده بود. ویمپر برای خودش یک کالسکه خریده بود. از آسیاب برای تولید برق استفاده نمیشد بلکه از آن برای آرد کردن گندم استفاده می کردند که سود سرشاری داشت. حیوانات به سختی کار میکردند تا آسیاب دیگری بسازند. می گفتند از آسیاب جدید برای تولید برق استفاده خواهند کرد. اما دیگر صحبتی از زندگی مرفه که اسنوبال وعده داده بود در کار نبود. روشنایی استبلها، آب گرم و سرد، سه روز کار در هفته و... ناپل اون می گفت، چون این رفاهی در تزاد با روح است و خوشبختی حقیقی در کار سخت و ساده زیستی است. مزرعه ثروتمندتر شده بود و حیوانات فقیر البته وضع خوک ها و سگها با بقیه حیوانات فرق می کرد. روز به روز بر جمعیت و سروتان ها افزوده می شد. البته اینطور نبود که خوک ها و سگها ها کار نکنند. بلکه همانطور که اسکویلر همیشه می گفت کار طاقت فرسای نظارت و سازماندهی را عهده داشتند. بیشتر این کارها طوری بودند که بقیه حیوانات توانایی درکش را نداشتند. مثلا اسکویلر می گفت که خوک ها تلاش بسیاری صرف کار روی چیزهای اسرارآمیزی از این قبیل می کنند. پرونده، گزارش، صورت جلسه، پیشنویس و غیره. اینها ورق های کاغذی بزرگی بودند که به دقت رویشان مینوشتند و بعد آنها را می‌سوزاندند. اسکویلر می گفت، این کار در آسایش و رفاه حیوانات نقش عمده دارد اما خوکها و سگها با نیروی کار خود غذایی تهیه نمیکردند. تعداد آنها بسیار چشم گیر بود و همیشه هم اشتهای خوبی داشتند. زندگی بقیه همانطور بود که همیشه بود معمولا گرسنه بودند روی کاه میخوابیدند از استخر آب می نوشیدند روی زمین کار میکردند در زمستان با سرما مشکل داشتند و در تابستان مگس ها آزارشان میدادند گاهی حیوانات مسنتر به حافظه خود فشار می آوردند تا ببینند روزهای اول شورش درست بعد از اخراج جونز زندگیشان بهتر از حالا نبود اما نمیتوانستند چیزی به خاطر بیاورند معیاری برای مقایسه وجود نداشت فقط لیست آمار و ارقام اسکویلر بود که همیشه نشان میداد همه چیز در حال بهتر شدن است حیوانات راه حلی برای این مشکلات نمی‌یافتند از طرفی کار زیاد مجالی برای اندیشیدن نمیداد فقط بنجامین پیر ادعا می کرد تمام جزئیات را به خاطر دارد او میگفت همه چیز همیشه همین طور بوده و خواهد بود و تغییر چندانی به وجود نخواهد آمد به نظر او گرسنگی و کار سخت قوانین تغییر ناپذیر زندگی آنها بود. با این وجود، حیوانات هیچگاه امیدشان را از دست نمی دادند. آنها از اینکه عضوی از مزرعه حیوانات هستند، به خود می بادیدند. زیرا در سراسر کشور تنها مزرعهی بود که متعلق به حیوانات بود و به دست خودشان اداره می شد. هیچ کدام از آنها، حتی جوانترینشان و تازه واردهایی که از سی 340 کیلومتر آن طرفتر آمده بودند در این مسئله شک نداشتند با شنیدن صدای تفنگ و دیدن به احتزاز در آمدن پرچم سبز قلبشان مال مال از غرور میشد. درباره حماسه های حرف میزدند یا در گذشته آفریده بودند بیرون راندن جانز نوشتن هفت فرمان و جنگ هایی که در آنها بشر را شکست داده بودند هنوز در رویای این موفقیت ها بود هنوز به جمهوری حیوانات و از بین بردن نسل بشر که میجر پیر پیش بینی کرده بود، معتقد بودند. باور داشتند که روزی این اتفاق خواهد افتاد. شاید زود، شاید هم عمر حیواناتی که اکنون زنده بودند به آن زمان نرسد. اما به هر حال باور داشتند که روزی نسل بشر از بین رفته و حیوانات مالک سرزمین های سرسبز انگلستان خواهند شد. حتی بعضی از حیوانات سرود حیوانات انگلستان را با خود زمزمه میکردند هرچند جرأت نداشتند با صدای بلند بخوانند اما همه حیوانات آن را بلد بودند زندگیشان دشوار بود آرزوهایشان برآورده نشده بود اما میدانستند که مانند حیوانات دیگر نیستند اگر گرسناند به خاطر سیر شدن شکم بشر ظالم نیست اگر کارشان طاقت فرساست، حداقل برای خودشان کار می کنند. هیچ موجود دوپایی بینشان نیست. هیچ کس دیگری را ارباب خطاب نمی و همه حیوانات با هم برابرند. اوایل تابستان بود که روزی اسکویلر به گوسفندها دستور داد دنبالش بروند. آنها را به زمین بایری در آن سوی مزرعه برد که بوته‌های های خود را در آن رشد کرده بودند. گوسفندها تمام روز را آنجا زیر نظر اسکویلر سپری کردند. شب اسکویلر به خانه اما چون هوا گرم بود گفت بهتر است گوسفندها شب را همانجا بمانند گوسفندها یک هفته تمام آنجا ماندند و در این مدت حیوانات آنها را ندیدند اسکویلر بیشتر وقتش را به آنها می گذارانید. می گفت دارد سرود جدیدی به آنها یاد می دهد که لازم است محرمانه بماند یک روز عصر که حیوانات کار روزانه خود را به پایان برده بودند و داشتن به خانه برمیگشتند صدای شیعه وحشت زده یک اسب را شنیدند صدای کلوور بود. دوباره شیحه کشید. همه حیوانات به سمت حیات دویدند و چیزی را که کلوور دیده بود دیدند. خوکی داشت روی دوپا را می رفت. بله، آن خوک اسکویلر بود. کمی ناشیانه راه می رفت. انگار هنوز عادت نکرده بود وزن سنگینش را روی دوپا نگه دارد و تعادلش را حفظ کند. اما بعد هم نبود. او طول حیات را طی کرد و لحظه ای بعد صفه طویلی از خوک‌ها از خانه بیرون آمدند و در حالی که روی دو پا راه حیات را دور زدند. بعضی بهتر از بقیه قدم بر می داشتند. یکی دوتا از آنها نمی خوب تعادلشان را حفظ کنند و به نظر می‌رسید به اسا نیاز دارند. اما در هر صورت همه آنها توانستند با موفقیت دور حیات راه بروند. بعد صدای صدایوااقواغ وحشتناک سگ ها و صدای جوجه خروس به گوش رسید و ناپل اون از در خانه بیرون آمد صاف راه میرفت و با کبر و غرور اطرافش را نگاه می کرد سگ های درندهاش هم دور و بر او میپرککیند ناپل اون شلاقی در دست داشت سکوت مرگ باری بر مزرعه حاکم شده بود حیوانات شگفت زده و وحشت زده به هم چسبیده بودند و صفه طویل خوک ها را نگاه می کردند که داشتن جلوی چشمشان در حیات رژه میرفتند. کار دنیا وارونه شده بود. کم کم اولیه برطرف شد. حیوانات با وجود وحشت از سکها، با وجود اینکه سالها به انتقاد نکردن عادت کرده بودند خواستن لب به اعتراض باز کنند هرچه با اما در همین لحظه با علامت اسکویلر گوسفندان با صدای بلند شروع به خواندن کردند. چهار پا خوب، دو پا بهتر. چهار پا خوب، دو پا بهتر. چهار پا خوب، دو پا بهتر. آنها پنج دقیقه تمام بدون وقفه خواندند. وقتی گوسفندها ساکت شدند، دیگر فرصت اعتراض از دست رفته بود چون خوک‌ها به داخل خانه بازگشته بودند. بنجامین برخورد پوزهی را به شانهش حس کرد. برگشت. کلوور بود. چشمهای کلوور کم نورتر از قبل شده بودند. بدون آنکه چیزی بگوید آرام یال بنجامین را گرفت و او را به سمت آقال بزرگ برد که هفت فرمان را روی دیوار آن نوشته بودند. یکی دو دقیقه به دیوار نگاه کردند. بالاخره کلوور گفت های من یاری نمی کنن. وقتی جوان بودم هم درست نمیتونستم بخونم. اما به نظرم میاد نوشته های روی دیوار تغییر کردن هفت فرمان همون جوریه که قبلا بود بنجامین بنجامین برای اولین بار قانونش را شکست و نوشته های روی دیوار را برای کلوور خواند چیزی نبود جز یک فرمان همه حیوانات با هم برابرند اما بعضی برابرترند بعد از آن دیگر عجیب نبود که خوک ناظر هر کدام شلاقی در دست داشته باشند دیگر عجیب نبود که ببینند خوک برای خود تلفن خریدند و اشتراک مجلات زیبایی و مد را گرفتند دیگر دیدن ناپل اون در حالی که پیپ میکشید و در حیات قدم میزد عجیب نبود خوکها لباس آقای جونز را از گنج در آوردند و پوشیدند. ناپل اون کت سیاه، شلوارک و چکمه چرمی پوشیده بود و ماد خوک که محبوبش لباس ابریشمی خانم جونز را کرده بود لباسی که خانم جونز روزهای یکشنبه پوشید. یک هفته بعد موقع اصر چند درش وارد مزرعه شدند نمایندگانی از مزارع مجاور برای بازدید از مزرعه دعوت شده بودند آنها تمام مزرعه را دیدند و همه چیز را تحسین کردند خصوصاً آسیاب بادی حیوانات مشغول کندن علفهای هرز زمین شلغم بودند به سختی مشغول کار بوده و سرشان را بلند نمیکردند نمیدانستند از خوک ها باید بیشتر بترسند یا از آدم ها. آن شب صدای آواز و خنده بلند آدم ها و خوکها از خانه به گوش می رسید حیوانات کنجکاف شده بودند ببینن توی خانه چه خبر است؟ حالا که برای اولین بار حیوانات و آدمها با شعن برابر یک جا جمع شدهاند چه اتفاقی میافتاد آهسته و بدون سر و صدا به سمت خانه خزید. دم دروازه که رسیدن ترسیدند جلوتر بروند اما كلوور آنها را برد داخل آنهایی که قدشان بلند بود از پنجره سرک کشیدند شش خوک برجسته و شش آدم دور میز بزرگی نشسته بودند ناپلئون در صدر مجلس قرار داشت خوکها راحت روی سندلی ها لم داده بودند ظاهرا برای نوشیدن موقتا دست از ورق بازی کشیده بودند کوزی بزرگی دست به دست می گشت و جام ها را لبریز از آبجو جو می کرد. هیچ کس متوجه چهره های حیرت زده حیوانات نشد که داشتند از پنجره داخل را نگاه میکردند آقای پیلکینتون از فاکس وود ایستا در حالی که جام نوشیدنیش را در دست داشت. گفت دوست دارد این جام نوشیدنیشان را به سلامتی هم بنوشند. اما قبل از آن لازم است به چند نکته اشاره کند. باعث این افتخار که دوره بی اعتمادی و سوء تفاهم ها به پایان رسیده. یه موقعی ما آدم ها به مزرعه حیوانات بدگمان بودیم. اتفاقات ناخوشایندی افتاد و افکار غلطی رایج شد. ما فکر میکردیم این که یه مزرعه رو خوکها اداره کنن غیرعادیه و ممکنه نظم مزارع مجاور رو به هم بزنه. خیلی از کشاورزها بدون تحقیق کافی ادعا می کردن در این مزرعه روح سرکشی و بینظمی حاکمه. میترسیدن وجود چنین مزرعی تاثیر بدی رو حیوانات یا حتی کارگرهاشون داشته باشه. اما حالا همه این تردیدها برطرف شده. امروز ما از وجب به وجب اینجا بازدید کردیم. نه فقط جدیدترین روش ها را رو دیدیم، بلکه شاهد نظم و ترتیبی بودیم که باید سرمشق بقیه مالکان قرار بگیره. اینجا حیوانات سطح پایین بیشتر کار میکنن و کمتر غذا میخورن. به اعتقاد من، ما باید بسیاری از روش‌های مزرعی حیوانات را فوراً در مزارع خودمون به کار بگیریم. آقای پیرکینگتون بار دیگر بر اهمیت حفظ روابط دوستانه بین مزرعی حیوانات و همسایگانش تاکید کرد و ادامه داد: نباید بین منافع خوک ها و آدم ها تضادی وجود داشته باشه. مشکلات و چالش‌های ما مشترکند. مگر نه اینکه همه مشکل نیروی کار داریم؟ مشخص بود که آقای پیرکینگتون میخواهد لطیفه‌ای بر زبان بیاورد اما چنان هیجان زده شده بود که چند لحظه نتوانست حرف بزند بالاخره گفت اگه شما مشکل حیوانات سطح پایین را دارین ما هم با های طبقه پایین اجتماع درگیریم. همه خندیدند و آقای پیرکینگتون بار دیگر به خوکها تبریک گفت که با این جیره کم توانستند ساعت طولانی از حیوانات کار بکشند و تن پروری و تنبلی را از مزرعه بیرون کنند بعد از همه خواست به ایستند و جامهایشان را پر کنند آلی جنابان به سلامتی مزرعه حیوانات همه بلند شدند و صدای خوردن جامها به هم در فضای خانه پیچید ناپل آنقدر انقدر به وجد آمده بود که خود را به آقای پیلکینگتون رساند و جامش را به او اوزد بعد از آن ناپل آن که هنوز روی دو پای ایستاده بود اعلام کرد که او هم می چند کلمه حرف بزند. مثل همیشه مختصر و مفید صحبت کرد. من هم خوشحالم که دوره بی اعتمادی به پایان رسیده مدت شایعاتی رو افراد بدخواه و بدجنس به وجود آورده بودند که من و همکارانم قصد ایجاد شورش و برهم زدن منطقه رو داریم. این به هیچ وجه حقیقت نداره. ما میخوایم در صلح آرامه زندگی کنیم و با همسایه همون روابط تجاری عادی داشته باشیم. این مزرعه که من افتخار رهبریش را دارم، به صورت شرکت تعاونی اداره میشه. سندش هم که پیش منه، مشترکاً به نام خوکاست. به اعتقاد من سوء تفاهمات دیگه رفع شده، اما اخیراً تغییراتی در مزرعه ایجاد شده که مایلم به گوش شما دوستان برسونم. تا حالا حیوانات مزرعه رسم احمقانی داشتند که همدیگر رو رفیق خطاب میکردند. این قضیه دیگه منسوخ شده. رسم دیگه ای بود که ریشش نامشخصه. اینکه هر صبح یک شنبه حیوانات جلوی جمجمه یه خوک رژه می رفتن که توی باغ روی یک پایه نصب شده بود. این رسم رو هم برانداختیم و جمجمه رو دفن کردیم. دوستان محترم حتما چشمشون به پرچم سبز ما افتاده. قبلا روی پرچم علامت سم و شاخ با رنگ سفید کشیده شده بود که اون رو هم پاک کردیم. الان فقط سبز ساده است. سپس ناپل اون گفت که نقدی بر سخنرانی عالی و دوستانه آقای پیلکینگتون دارد. اینکه ایشان از این مزرعه به نام مزرعه حیوانات یاد کردند، حال آنکه نام اولیه مزرعه مزرعه مانر بوده و شایسته است دوباره آن را مزرعه مانر بنامند. ناپلئون این گونه به سخنانش خاتمه داد. آری جنابان من هم شما را به نوشیدن دعوت می‌کنم، اما این بار به سلامتی مزرعه مانر. دوباره جام ها به هم خوردند و تا آخر خالی شدند. از نظر حیوانت که داشتند این صحنه را از پنجره تماشا می کردند، اتفاق عجیبی در حال وقوع بود. چه چیزی در چهره خوک ها تغییر کرده بود؟ چشمان کمسوی کلوور از چهره ای به چهره دیگر دوخته می شد. بعضی از آنها پنج قب قب داشتند، بعضی تا و بعضی تا. اما چه چیزی داشت محف می شد و تغییر می کرد؟ بعد حیاهو خوابید و خوک ها و آدمها بازی ورق را از سر گرفتند حیوانات آهسته از آنجا دور شدند هنوز بیست قدم بیشتر نرفته بودند که دوباره صدای فریاد و حیاهو بلند شد برگشتند و دوباره از پنجره سرک کشیدند. بله نزاع وحشیانهای در جریان بود فریاد میکشیدند روی میز میکوبیدند چپ, چپ به هم نگاه میکردند و یکدیگر را متهم به تقلب مینمودند ظاهرا علت اختلاف این بود که ناپل اون و آقای پیلکینگتون همزمان آس پیک را رو کرده بودند دوازده صدا با خشم فریاد میکشیدند و همه شبیه هم بودند دیگر این قضیه مطرح نبود که چهره خوک ها چه تغییری کرده است حیوانات از خوک به آدم نگاه میکردند و از آدم به خوک و دوباره از خوک به آدم اما دیگر نمیشد تشخیص داد کدام ها آدم و کدام ها خوب